می اگه راحت باشین من سواله رو خیلی روی چون اصلا بلد می شود تارفات یه موقعی اصلا با فقط شود می فرد مورد باید نکنم سوال که می خواهیم بپرشتم یه بیوگرافی خیلی ساده اگه لط کنید از خودتون محل تولوت نورتون بعد دین خنواده طرز تفکر خنواده از این همسر بچهاتون به فرمان خیلی مهمونی برای این موضوعی که ما میخوایم واردش باشیم هیچ ضرورتی نداریم من سال ساله توی این شهر تهران متعلق شدم تقریبا اصلا درس نخوندم و هیچ و هیچ استادی رو را... استادی نداشتم و در واقع هر کنکاشی در امور انسانی در علوم انسانی و امور انسانی مسلما نیاز با استاد معیین نداره و هر کسی میتونه با مطالعات در زمینه ی رقاه خودش به حقایات درس ریده کنم بنابراین علوم انسانی گرچه این کلمه علوم در مقابلش خیلی فریبنده است اما اصلا علم نیست چون مسائل انسانی با نظریه پیش میره این ریاضیاته دو یه بیگافری دو بست و چهار شما این چهار سر گله ایوریس هم همین رو برید همینو اولانوس همین در جنگل های آفریقا هم همین در دانشگاه اروپا همین خیلی جالبه چون هم این بوده یا نبودن اولوم انسانی و هم نواهد انسانی من با روی که بحث میکردن سر همین به جای خیلی باریک کشیده. کش ممکنه رو جایی باییتره ولی این موضوع رو عوض می که اونا ها تلیشو نمیخواد توجه کنن به موانی خب نکنن ولی اون کسی که توجه میکنه میدونه که علوم انسانی نه دانشگاه میخواد نه استاد میخواد نه راهنما میخواد نه هیچ شما ابتدا خودتون تجدیم خوب با خودتون معین میکنی و مثلا به این نقصی میرسید که به مرازه هنر دید. دید دومل هنر یا به مثلا چند های اجتماعی علاقمندید به سیاست علاقمندید به تاریخ علاقمندید به عدبیات علاقمندید هر کدوم از این علاقه ها شما را به مطالعه یه سری کتاب راهنمایی میکنه و این شما اینکه که با خوندن اون کتاب ها برداشت لازم در موضوع مورد علاقتون به دست اگر شما به عالیترین ترین دانشگاه های دنیا هم مراجعه کنید و در یک عشق علوم انسانی ثبت نام کنید وقتی برید سر کلاس استاد میاد استاد میگه که این کتاب و این کتاب و این کتاب و این کتاب, و این کتاب, و این کتاب رو بخونید مثلا خلاصه برداری کنید یا نتیجیگیریش رو مثلا بازنویسی کنید بیارید در کلاس این استاد شما خودتون میتونید اون کتاب رو بخونید آه. فراملین اصولاً امور انسانی یا علوم انسانی احتیاج به مراکز تربیت مثلا نظریه پرداز نداره چون نظریه پردازی از حاصل برایند مطالعات اشخاص می میاد. استاد هم شما بریند در این باره نظریه پردازی کنید پس در این ای که صحبتش در جریانه یعنی تاریخ هیچ مرکز آموزشی به شما کمک نمیکنه، کنه مگر خودتون یعنی با مطالعه اسناد تاریخی موجود در منطقتون، در کشورتون، در شهرتون یا در جهان یک نتیجه گیری میکنید. اون نتیجه گیری ممکن از شما نظره پردازم بساسه با این اصلاب شما سنون تهران متولد شدید درسته دینتون مسلمونید دیگه درسته موسلمون کنوعاتا مسلمون و نه درسته و زمانستون پارسیه پارسی. شما خیلی شما رو مستمم بکنم بگیرین که از سمت عرب ها از سمت اینا ها اینا با باستیه بنام میریدید فرض کنید که من قبول میکنم که هم از طرف عربا هم از طرف ترکا هم از نظر احالی کره ما تقلیحت میشن این چگفتی داره به این که من ثابت میکنم تقضیمشید یه بنای نیمه کاره هست. اگر من مثلا از ترکا پول نگیرم تقضیمشید کامل میشه یا اگر از عربا کمرس نگیرم مثلا نظری ها باطل میشه این از عداعت خورای بچه دانه هست. و خودش دلیل اینه که جوابی برای این نوشته ها ندارن طبیعی است که بند میکنم اینکه مثلا شما چرا چند کیلویی مثلا یا چرا قد دینجوریه چرا پیرن دینجوریه یا مثلا فلانی در فلانجا در باره شما گفته فلان گفته شما خیلی پرخوریم مثلا یا کمکوریم حرفات در اینکه این مباعث نظریه پردازی جایی نظریه که جا. هرکی ایچه دلش بخواد بگیره چون تحصیلی ای توی این داده هایی که تاکنون انجام شده نخواهد داشت نه؟ هم فراب بردم نمی کنی؟ حالا در این نظرشت ها نمی کنه فریدم آقایون قبلا اعلام کردن که من بچه خوردم شما خبر ندارین؟ گفتن من بچه کشتم و خوردم های کشتم و خوردم دیگه بچه هی الان فرزنده هموند که ایران همد خالید هم. درسته در از هست اون هم خبر درسته با... از من تنها و تنها و تنها زیم خیلی دوستان شما هستن نه اون که ذهنیه اینن من تنها هستم. الان همه اصدت مشتبه خان نه فعالیت میشه یک خلاصی ازش بگید. از فعالیت یعنی چی؟ یعنی فعالیت های کاری علمی من یادم نوری... میاد توی مسائل فرهنگی و سیاسی فعال از حاصل فعالیت های سیاسی چیز دندانگیری مگر پشیمانی ندارم که یه مش عوامفری یه مش مثلا پرو دنبال خودشون میکشیدن کشیدن از حاصل فرهنگی فعالیت‌های فرهنگی هم همین گفته که الان منو شما با هم به انجام تو نویسندگی از قدیم بودید؟ نویسنده بودید یا؟ نه که یادم میاد تو حوزه فرهنگ فعال بودن از تو دولتی هم بودید؟ ها بلا <تصفيق> در تمام عمرم از ده تا اداره دولتی تو نرفتم برای که خیلی دلچسام نیست فارده یه حوضه مدیریتی دولتی بشن و مثلا از دیدن کارهای اونها که سعی میکنن که مراجعه کننده رو سر بدونن و از این کار دارن لذت میدارن من از اون متنفرم بنابراین سعی میکنم که حبتا امکام کارم با دستگاه های دولتی نیفته تو سازمان میراث پرنگی هم همکاری مفاده که نده؟ با که با هم دشمن شدیم، دشمن دو خونی شدیم از کاراشون احتلاع دارید که کجره کار میکنم؟ همه اش به درستانی تو دریا میکنم استاد معنی فامیلیتون چیه پور پیر، پور پیره یعنی فرزند گذاشته ها پیره های یعنی این یار سال یعنی چی؟ آها. تازه خبرم دلل به ولی شما نظریاتتون مربوط به زمان حالی یعنی گذشته کلا تحلیل کردین اون چیزی که ما ازش نمی‌دونستیم. خب بود. الان یه انقلاب جدید روش من تخریب نکردم چیزی رو من به شما توجه دادم که شما راست نگفتن این شما که میتونید این برداشت رو از حرفا اون من بکنید یا نکنید این کار من تخریب چیزی نیست کار من توجه دادن به اینه که کسانی برای منافع معینی به بمنظرهای منطقه ذروق گفتن کشف این ها از قدر تربیتی و فرهنگی ممکنه روی بعضی ها چنان آثاری واقعی بذاره که خودشونو در سطح مبارزه واقعی میبونه دروخ جا بدن میگن که با وجودی که مردم ما دارن به گزشتشون افتخار میکنن حالا یا بوده یا نبوده داریم یه جوری خودمونو مثلا دسته بالا میگیریم بهشه استقای میکنیم بچه همون انگیزه میگیرن قوت قد میگیرن بعد شما این نظرسی که دادید کلا مردم و حالت رو حالت توستریخو رو به سرکوبی شده مردم این من بررفتن ها فایده هست شما باید راست چیه دروغ چیه؟ شما باید از طریق مطالعه مقایسه و اص... ملاحظه اسناد، تشخیص دادید چه چیزی حقیقت چه چیزی دروغه اگر تشخیص دادید یه چیزی دروغه این دیگه بسطر شخصیت شماست که باز هم اون مسئله دروغ رو بکنید یا نه. اگر شما قراره خوشتون بیاد که بچه تون از یک حقیقت دروغی فیرو بکنه و از اثر اون حقیقت دروغی خوشحال بشه خب این کار رو بکنه بس همین شما رو نداره میگن هرچی دروغ دور بریزیم ببینیم راستش چی روزه اینجاش تاروب که نمی کنیم که یعنی تاریخ نمی رو بر حسب خوش آمدن و بد آمدن بچه های شما یا هر شخص دیگه که ارزیابی نمی کنن. فقط مسئله اینه که اگر معلوم می شود و می توان معلوم کرد که در زمینه بسیار زیاد به ما دروغ گفتن، برای اون دروغ نوشتن اونگاه از طریق فهم این قضیه شما میتونید برید دشمن شناسی بکنید بگید این دروغ ها رو چی گفته؟ و چه هدفی رو دنبال میکردن؟ اینا برای این حرف ها حاله یه نفر مثلا عاشق حافظه یا خیال میکنه مثلا دالوش مثلا مرکز خوبی های زهان بود این به خودش مربوطه، ما میگیم که این کتیب جعل جدیده اگر این که, اثبات این, که این کتیب جعل جدیده شما رو تحریق نمیکنه که دنبال بقیه دروغا برید به درد این کار نمیخورید. کنید فاسبت رو وقتتون طرف میکنید برداد منتقداتون شاید اونایی که در گذاشته اونایی رو دوست به شما شناسته می اونایی که در آینده در زمان حال موقعات شما سقرطن می بونن. مثل برسپایی به شما دارن. مثل تودهی بودن که حالا فکر میکنم شما یه اشاره هم بیشتردی جواب شما چیه؟ اگه تودهی رق نداره که در مورد تاریخ مطلب بگه یا نظریه رساره داده اینه که الان هم همون مسیر رو دارید ادامه میدهید داشته باش داشت. همون چی؟ همون مسیر تودهی ها چه مسیر تودهی چه مسیری؟ اینا میگن که اینا میگن یعنی چی؟ چی؟ کیا میگن؟ من منتقدان ما منتقد نذاریم منتقد اونه که در مقابل ده هزار صفحه ای که تحقیق گرفته، بتون یه پاراگراف جوابیه بنویسه منتقد است که میگه که مثلا شما هر روز صورت یه خوب چرا حدثه میکنه مثلا این حرفا به درد این موضوعات نمیخوره این موضوعات نه نوع دیالوگ خودشون رازم داره نه اینکه شما توده ببخشی مثلا فرض کنید که خیلی دیدم دیدن تودهی بودن هنوزم هستن چیزی هم نمی نویستن هم نه به طریق دارن نه به مهمتر و عرضه که یه تودهی وارد به صلاح روشن کردن این های راست و که فرهنگ و تاریخ و حقوقیتش برمیگرده مشغول باشه یا یه تودهی که هیچ کاری نمیکنن، احتمالاً احتمالا از مسیر پولی که بانک ها سپرده به ارتضاق میکنن یه حرف اصلا به این بحث ها داره دیگه شما دیگه میگن که ما خودم اعتبادن که واقعیت از زبان هرکی باشه باید شنید باید فضاوت کرد. آخر ما به فرافکانی اونا چه نیازه توجه اینو شما شاید یه ازده که سپیچه هاشون بالاتر سرطه بالا ترسیف رو میگن ولی اون کسایی که عوام هم تو کسی بازارن هم مدرس بهش میکنه اون این بحث رو نمیتونن جدا کنن اون هم که بهشون بگه طرف توده یه و هر به تودن منحل شده پس اون کسی این حرف رو میزنه خواهی اونا اینو باور میکنن خب باور کنن وقت شیفت ها ستوناش کامل میشه تاق میخوره تو زینیان عوام نیکنید؟ تو زینیان عموم نیکنید اگر کسی این همه عامی من وزیف نکنم اونو موازویت کنم با چیزایی بگم که احتمالا موجب برنجش اون نشه آدم عامی که به این کارا اصلا چگاه داره چرا به بلاد رو میکنه یا چرا سعی میکنه که ایرادگیری کنه ولی عامی برد دنبال زندگی عامیانه خودش آقا اینجا سوات عوام سوات اینی که خواست بیش از هر آمیل از این بازار یعنی وقتی شما یه مستند تحقیقی اینجا کسی به یک استاد تاریخ ببینه اگر خود خودش راضی کنه که بشینه و ببینه سنجا بگه این همش دکور بود، هیچ کداش حقیقت نبود یه آقا تودهی ای این همین چون میدونه اگر به فرمان عقل قبول بکنه و اعتراف کنه که آن چی تو ببو بچه میداده دروغ بوده به حقیقت جایلگرد اون وقت فردا به سر کلاس چی بگه؟ باید برگرد برگرده بره بشین کلاس اول که بنابراین اون کسایی که در مقابل این درگاه گرفتن و جس میان و حرف رو مفت میزنن بیشتر در رده های فرهنگی بالادسته دسته. چون اونا هم واسه ها نوشته و از این به شکوب تحت جمشید او که از موارد پیروی کنه که چون اگر قرار باشه این کار رو کنه اولا باید اون خودش اگر چیزش منوشده تو جوه ها. مشکل ما برخورد با ظاهراً آدم هاییست که دارای یه گریل فرهنگی هستن و در مسائل دروک هایی که یهودی ها برای ما بافتن در انتشارش نوعی مشارکت داشتن. اونها هم که این مباحث می و وگه شما اگه مستند تحقیل ایش در یه خانواده نشون بدی که پدر بزرگ و مادر بزرگ و ها و عروسها و داماده نشسته هشن پدر بزرگ و مادر بزرگه چه ایش منافعی در قبول در راست و دو نداره میگه راست بگم از این مستند بهشون میده که تصمی کامل نیست دیگه چون اون چیزیش در تر تر اما اون اصلاده دوچار گرفتاری میشه چون میدونه اگه اون مستند رو بپذیره خودشون حرف کرده یعنی گذشته خودشون حرف کرده ما چندان آدم فراوان نداریم که از تا عربی مثلا نفی بزشته یه خوداشت تو کار وحشت نشه در جردین ها من میخونم نرسی که میدونید در شما نظریات کیو رو میخونید این اسم قدیمیش بوده ناصره و نخاننده کمک بازی تو تونه میتخلیم که مثلا در خوب حالا اگه عوض کردم یا نکردم به این مباحث رفتی داره باشه دادان گدافت من دیگه اوه هر کی که رفتی تو کلمه ما دیگه الان من ما بعت نمی‌دونم می‌خوندن در همین فیلم مستند کاپ جانشید که گفته بود از یه زوایای خاصی گرفته شده یه خودتون رو همین حرفو میزنیم چون اون آقای اجازه نه نه احتمال میه چون مثلا به زاویه راست نداره ویدئو وقتی شما شوخی یه بخشی یه گولی یا نگام کنه راست به زاویه گلش که تراش برورده بغلیش تراش کرده ده توو وقت این جزال ویستون مثلا زاویه چیه مثلا ما اون یه گل پلاستیکی ساختیم رفتیم چه سوندیم به اون دیوار اگهش فیلم گرفتیم اینا چه جز هست که که بعد بگین که این ورژن این مباحث اینجوری وقتی کسی وارد میشه سوال داره و فران این حرفا میگیم حالا سوال بر این سیدی رو ببین و بیا ببینیم تو چه تغییراتی کردی اگر کسی تختایش کسی دید و موضع خودشون سندسد به حرفانه تغییر نداد یا به تاریخی تاریخ ایران او آدم این حرفا نیست او قابل تربیت تاریخی نیست باید به جزو هر میلشه و زندگی بکنه او به صلاح نون ماست رو باید بخوره. به درد این نونه مباحث نمیخوره کنه استاد استاده دانشکده دانشتیه که سوال که نظر شما راضی به آقای پرکیراچیه گفته که بزرگتر نیرادی که بهشون وارده اینه که ایشون رو روش تحقیق ندارم گو با چه... چون با چه ما شدن چون قصد داریم فاهم مثلا کلیشته های انسانی با چگی محمدی که میگه می یک از اولین کتاباش مثلا چهار باید ایشون در بحث ترتیب باید با این شرایط به شما تحقیق کنید اینطوری آمار ببرید اینطوری بررسی کنید میگن اسم این راشی طرفه هست و چون بر شما درش خیلی اعتقاد نمیخواد نادشته باشیم خودش میدونه ما به مردم لازم معتقدیم ما اسلاده این که چی به نظرمون غلطه به صورت مطالب به صورت تصاویر به صورت موارده ارائه میدیم وقتی ارائه بودیم روش تحلیل خودمون رو برای بیان موضوع خودمون رعایت کردیم اشکال کاری اینکه این مباحثی عرضه شده بسیار کلانه بزرگان نداشتن روش تعریف میسن میشه هر بحثی مثل شروع میشه خودی که روش تحقیه میگه منظورتون اینه؟ تره شما روش های بر اساس امکان جوابی یا امکان سنجی اسناد تحلیل میکنن یه وقت هست اینقدر اسناد فراوانه که شما فقط کافی سریفرنس بنویسید و برید جلو یه وقت هست اصناد پوشیده شده و مخفی شده یعنی با شما باید نیرون بکشید این هر دو با یه روش ممکنه این کاره فرمی که روش تحقیق باید داشت بعد هر رو ویرگول لازمه باید ویرگول گزرشی ها نمیدونم کتاب ها باید کامل باشه چاک چندومه نمیتونم ناشرش اینا میدونی سنگ اندازی های در راه این که اگر یک کهتی دیست بود گرفت که متابق فرموده های دانشگاه یهودی و مسیحی نبود بهتونم نه این تخصیص شما هیچ درد نمی کنه یه چرا بگه چون ویرگول ندوشت. یعنی رو ندوشتی درد یعنی اونگه رو به جو به خورده می و مثلا فرصو میگن که شما باید ای که می در یکی از مجله تخصصی چاپ کنید تا نظریه شما مورد مثلا اتفاق قرار بگیره یا یه امان نظری بهش باشید باید له مربوطه هم نگاه شما چی گفتی اگر گفته بودید که هرچی شما ساختید برای ما دروغه که اون چاپ نمیکنه دیگه پس نتیجتا این که شما میرید در محاق سکوت اینا شگرده اینا واقعیت نیست و نیاز اصلی نیست اینا جه محکم کردن جفه های خودشونه برای اینکه غافلگیر نشن چون کی مثلا فرض کنید که ادعای وندل راجع به این که تمام چتیبه که در ایران قلاویه در یک مجله بین‌المللی به جهان معرفی کنه چی؟ هم دانشگاه شیکاگو که خودش ها رو چنده؟ خب نه. پس بنابراین گوشتون به یه حرفا بدهکار نباشه. باید برید ببینید که این مجموعه اسنادی که در فرانجا در فلان مقاله ارائه شده آیا قدرت ترح و اثبات نظریه رو داره یا نه اون که شما به شما میگه روش تحقیق منظورشونه که یه جوری تحقیق کن که محضر من بوده باشین روش تحقیق معنی نداره که روش تحقیق یعنی که شما یک سوال بدی که یک مطلبی رو زیر شک ببره یک سآل دیگه بدید که این شک رو دقیق کنه یک سآل یا نشانه یا مدرک یا مصنعه دیگه بدی که به کلی شب موضوع قبل رو پاک کنه بذاری که نفره موضوع جدید بگن چون نظریه پردازی های مربوط به امور انسانی فقط حوزه نظریه است. یعنی شما نظریه میدید دلایلشون میارید تا زمانی که این نظریه نتواند منکوب بشه و به وسیله نظریه جدیدتر مغلوب بشه اون نظریه قالبه بوسه همه اون چیزایی که دور و بر بنابراین اینا ابزار دست کسانی هست که خودشون میدونن به فرنگ باشه دروغ گفتن ولی ما گفتن دروغا برن اما دیر جون میگن جون برن باشه در, در واقع اینا میگن که اگر <تصفح> اون چیزایی که ما میخوایم با این روحی تخریب باید برید میشه مثلا قانونی علمی دانشگاهی اگه از این باشه میشه مثلا چلمه دانشگاهی غیر مثلا نه هم نه دونی. حالا اگر او مثلا از طریق دانشگاهی اومده باشه رفته باشه تو نقش رستم یا تو بیستو تون یا تو کمشه جرد کرده باشه چون باره نباشه, نباشه. دانشگاهی دانشگاه اونا... جرده خیدم خوبه نه در خیدم محترم و مقدسه به شما هم ندارید بگید اینجاش شده اونجوریه یا اونجا شده اینجوریه اینا دوکون و, خوب و بازی و مسخره کرده کردن برهنگ بشریز این حرفا یه سری سوالات هست که جوابش بادر بشه که به اون صورت غالبی ارائه شده گرفته نمیشه اجلا تحقیقه نمیشه که جواب گرفته بشه اگه میخوای به جایی برسی که تحقیقه نرسیدی باید کاری بکن که تحقیقه یه ایراد دیگه که من به تانش گرفته بود اینکه شما تحصیلات عالی ندارید خب من خیلی خوش که به اینشون تحصیلات عالی ندارم چون اگه تحصیلات عالی داشتم الان یه دکترا به اتاق خونه همون بود که نشان میداد من چقدر به حالو حالوام یعنی اون دکترا رو به کسی میدن که این دروپ ها رو به عنوان حقیقت قبول کرده باشه من خیلی خوشحالم که از اون گروپ نیستم یعنی کار من الان ابتال دکترا نه دریافت دکترا بسیاری از این مواعثی که ما تر کردیم در جهت خلافش شده یه پیپری که روش اجازه صدور دکترا دادن این دکترها رو من دارم حال جمع میکنم، کنم یعنی نمونای هم دارم که میشناسم که هم در خارج هم داخل حتی از این موارد دکترها هاشون هم مثلا توش ومینه هر کسی این کارو میکنه وقتی که شما با تصویر و مباحث آشکار کننده میدید اینجا تا شهست سال پیش کتیبه نبوده و حالا کتیبه یا رو وقتی این کتیبه رو مقدس میگونسته میفهمید که چه کلاهی پر شروشتن توف میکنه به روی همه این فرنگ یه او در حسن عباسی هم که مشاور رهدار است ایش میگه که به من نگید دکتر حالا اونم رواد یه علتی برای خودش داره ولی من نمیدارم اون علت چیه نظرتون روزی به نوردین کیه نوری کیه؟ میتونید؟ ربطی به مباحث موجود در مورد شما نمیشتن ایشون گفتن که ایشون یک ازبال ایشون دروخوی بزرگی هست که هر جا برسی کلاهی میزن به اون بعد میره سراغ. خواهی حالا چون مفت بی و در این حال به این گفتگوی ما هم من جواب برد. جواب اون من در آغاز انقل سال پنج در حق و جزبه داددم که خودش در دادگاه من م عنوان شاهد می گفت که لطمه که نوشداری این به ما زد دورلت شاق ندادم می اونها رحمی هستند. یعنی مسئله این نیست که او منو بشناسه یا نشناسه مسئله اینه که اونا به خاطر نوشته های من موقعیت اجتماعی خودشون رو خیلی شو از دست دادن یعنی یه گروه میانی از کادرهای عزب توده پس از خوندن مطالب به من که هفت جزه با اومان ناریا بود فضوله که رفتن اینا هیچ وقت تسکیم پیدا نمیکنن از این وضعیه همیشه اونها مشغول اینن که یه ایوهیرادی پیدا بکنن که به بشه به یه نحوی به من منتصف کرد هر کاری دلشون میخواد بکنن ما بحثمون بحث پولیمیکی نیست اینا بحثای پولیمیکیه ما بحثمون اینه که درباره ما چه کسی چی گفته و این گفته یا دروغه یا سندسازیست و راست نیست فرداش یکی شد که روش تحقیم در رو میگید من روش, روش تحتیل ندارم من اصناد به دست بامده رو عرضه میکنم شرق میدم و انقدر ساده است موضوع که فهمش احتیاج نداره از یک کانال به خصوص انجام شد هر کسی که این مطالب رو بخونه یا مستنگار رو ببینه وارد حوزه شک نسبت به داشارهای تراکی خودش خواهد شد. به رویش نمیکنید هر کار حقبار بهشراب ساختگی برای کنترل اظهار نظر نه هم نظر درش مورد نظر دانشگاه است نظره که الان مالع که فردا برای چند در میخواد میید اون مطالبی که میخواد جمع کنید از کجا؟ هرچه که مساجه شدم چی میکنم بگیم؟ این, این روشی که یا تنها روشی که در مقابل هر کسی قرار میگه که بخواد یک مبحث کلان را پیش ببره نه یه بغازه خوردو که این یه پازهار اولیه یه تشخیص درست داره یعنی او میدونه که پورین در منطقه ما به وقوع پیوسته. تا شد فیلم <تصفح> اون مورس یا محفظه که میدونه پوریم رخ داده و از فصل پوریم حتی یه زن مرد هم باقی که تولید مست او وقتی این بیس اولیه و چارچو و نخستین را داره خیلی کارش راحت. یعنی اگر میدونه و باور کرده و دلیل داره و مطمئنه که در فاصله بین اجرای پروژه پورین تا ناصرالدین شاه در مملکت ما انسان متمدن و متمرکز نیست این تحقیقات خودشو بر اساس این فهم اولیه تنظیم میکنه یکن بنابراین اگر شما مثلا میگی ابن سینا ببینیم چی گفته بوده ابن سینا چیه ممکنه در سرزمینی که انسان وجود نداره ابلسینا وجود داشته باشه یا میره دنبال مطالب دیگه ای که ثابت میکنه مثلا در فاصله دو داره سال در این سرزمین نه جاده هست نه پل هست نه کارمسرا هست نه مسجد هست نه آبانبار هست بصیل این زمان مادی نیست اون وقت میپرسه که بلی چی اینجا انقدر گفر و زندگی هیچ اثری از خودش باقی نداشته از فلان تاریخ تا فلان تاریخ. این یه حوزه اصلیی داره برای تفکر و کار که هر چیزی رو باید در اون حوزه اصلی بتنجه یعنی فقدان تجمع انسانی در ایران پس از پورین تا زمان نافرد هر کسی که این مطلب رو فهمیده باشه درد که این به دنباله های موضوع برای ساده است هر کسی که نه که چطوری؟ اون که همه رو کشته بشن که زن نمونده باشه اون باید بره به کلی بیرون یا مطالعاتش رو تنویت بکنه. بنابراین روش تحقیق نیست که اینجا کار رو به سامان میرسونه. رسونه استحکام یا بی اسناد و ادله هست که میتونه نظریه رو محکم سر جاش بچسبونه یا اینکه رو به دست باد بسلو بره در بسلا یه غوله فراموشی اینجا صحبت روش نیست اینجا صحبت آشنا کردن با مبانی است یعنی شما چندتا بنیانو باد تکلیف کونه رو باش روشن کنید بعد وارد یکی اینی که هیچ تجمع انسانی در ایران بعد از پولین تا ناصر تجمع انسانی متمدن وجود نداره هیچ ترتیبات نشانه تمدن یا تودی در ایران در همین مدت نیست از خدمتتون که شما وقتی شهر شهرهای ایران یا مثلا یکی از روز تقدیه که شهرهای ایران از 175 سال پیش از روی زمین بالا آمدن قبل از اون نبودن آخه سرزمینی که تو شهر نیست این حرفا به چه درد بکره؟ ابلیسینا چنان فرمودن شهاره چنان گفت این شاهر کجا زندگی میکرده؟ وقتی شما میدونی که شیراز یا شهریست که دیست سال پیش تازه سنگ بناشو رو گذاشتن هر بگی بپرسی که خب پس حافظ از کجا میدونست که شیراز کجاست که گفته خوشاف شیراز و وسط این مثالش این یکی به روش نداره اینا عرضه مبانیه یعنی میگه شما ادعای داشتن فرهنگ ادعای تجمع ادعای شرمشینی ادعای مثلا شعر ادعای نظری پردازی در امور فلسفی در امور کائنات اینا نکنید برای اینکه شما مبانی و های لازم این مسائل را ندارید این مباحث جدید و چند پایه قرار داده شده اگر شما نسبت به اون شناسایی و باور نداشته باشید همه این حرفا ظاهد یعنی اگر شما قبول بکنید که به علت نبود تجمع انسانی نبود شهر نبود امکانات آموزشی و فرهنگی اینجا هرگز آدمهایی با توصیفاتی مثل بیرونی خارزمی سینا یا شاعران مثل مولانا و غیرزالک حافظ و سدی نمیتونند ظهور کرده باشند زمینه ظهور ندارند چون اول شما یه یه مدرسه و مسچدی رو که احتمالاً ابن سینا توش درس خونده به من نشون بدید بعد بگید که ابن سینا اینو گفته و این گفته و این گفته شما که نمی‌دونید که ابن سینا چیه ابن سینا یه اسم که تحقیل شما دادن و به نام اون اسم یک سلسله تدارکات فرهنگی رو رو دوش شما بار کردن شما خیال میکنید که مثلا ابن سینا نوشته در دانشگاه های اروپا تدریس میشد این هر کورا کجا بردید چنین اتفاق نیفته در یه چهار رو یه, یه جوری تربیت کردن که از تمجید بی خوشتون میاد و دنبال و کشم حقیقت نمیدید چون اون از دستتون دره بنابراین برای اون کسی که میدونه در این سرزمین زندگی و فعالیت و هستی از پس ماجرای های متوقفه برای مثال که آقا هر چی شمیری، هر چی نوشتن، هر گفتن، هر چی شما رو راهنمایی کردن، راهنمایی مسیر ظالمه بوده. حقیقت اینوره. اون حقیقت که اینوره لا لا لا یادداشا به تدریج ارزه می‌شه. اگه الان کسی بفهمه، مثل شما تحقیق بکنه بعد یه سری مطالب قابل استناد ارائه کنه چرا می اون مثل اون مقالات کتاب کتابهایی که شما چاپ کردید این باید چی کار بکنه؟ چه چی چیزایی باید دیده جلوش بعد اینارو اینا رو بررسی کنه اول خودنگی بکنه شما کنیم مثلا یه آدم مثلا من تکلیرش مشخص شد اونا رو به یه روشی باور که این اتفاقات افتاده بوده خوب. مثلا الان میخواد در مورد مثلا کتب دیستون دنبال شما بره. بره. چه کتاب هایی بگیره بزار جلوش یا چه اکس های جلوش کتاب ها کمرکش نمیکنه او باید بره جستجو کنه و اسناد جدید را گسته در میکنه اسناد و مبانی جدیدی که همراه باشه با تجه پورین و اونا رو جستجو کنه یعنی کتاب که همه حرفایی داده که ماه حالا با معایتش آشنه یعنی ببینید شما اگر فقط بدید دنبال اینی که واقعا شیراز از که ساخته شده؟ فقط دوال همین کار بودید و به شما ثابت بشه که دیمیست و سیچر ثابت پیش تازه یه آدمی که اسمشو میزنن کریم خانه زند وسط یه بیابونی که هیچی نبوده یه حساب کشیده یه محبت این را و درون اون حساب شروع کرده شه سازی کردن اگر همین یکی رو شما برید دنبالش رو به تو بشه که شهر شیراز شهر نزدیک از نظر زمان حساب پس نمیتونه 700 سال پیش که اصلا چنین شیرازی نبوده یک شاهر رو داشته باشه که بگه خوش ها از رو باید بکرالش برای شما هر چه وقت میگه یه طبعات داره اون وقت میگه که پس هر کتاب رو که میگن دورتر از 350 سال پیش 300 سال پیش 250 سال پیش نوشته شده منتسب میکنم به قرن اول هجری دوم هجری سوم هجری چهارم پنجم ششم هفتم و در اون کتاب ها و هر مناسبتی کلمه شیراز جستجو بشه پیدا بشه اون کتاب جاله. اگر این کارو شما بکنید خودتون از شر نود درصد نوشته ها راجع به ایران خلاق کرد اینکه کار سخت می که شما بزارید که میخوا توجه کنیم دوی بیست تو اونور بالا و دسترسی بهش نداره برید دنبال این نظریه که آیا دا داری من در اینکه شاد شهر بیست پنجاه سال است پس نمیتونونه شاعر هفتصد سال پیش توش ورول کرده باشه فقط دنبال این برید اگر این براتون ثابت شد پس بدونید که کلمه به کلمه مطالبی را که من با معنی تاریخ و فرهنگ و هویت این مردم عرض کردم صحیحه چون یاد داشته از یک جای نامایدن و مخفی به هم دوخته شما اگر یکیشو رو باور کردید و پذیرفتید رفتید معنیش که همه دیویس نووته شو فضی رفته شما چون کار سخت میکنیم و خودتون کجایی هستین؟ من آزاریم. آزاری هم هستیم متمرکز شید رو مسئله شیراز تموم بشه همه اینایی که ما گفتیم چه شهر اینکه کاری نداری که آسانات رو بالا تیم بشین و حتی تو توی گوشه هزار تا دلیل برایم بدونین که شما برید شیراز و ارائه کردیم که اینا همه حرف مفته حالا من از شما خودتون میپرسم مثلا یکی از مواردی که من بهش متوکل شدم نبود اسناد دال بر روابط اجتماعی اسناد نشان دهنده حضور روابط اجتماعی چیز ساده است یعنی اگر زنی شواهد کنه یه جایی بنویسن چند تا شاهد که این خانم دیگه زن اون آقا از اول اولش این بوده با کصف مزعنونات قرآن توسیه کرده همه چیز رو بنویسید اگر به کسی بدهکار بودن نوشتم من همقدر به این آقا بدهکارم مثلا میدن یا مثلا فرض کنید که کسی زمین فروخته خرید و فروشی زمین شده یه سندی هست چند رفت تایید میکنن که این آقا و این زمین از این آقا یا خانم خریده یا اجاره دادن همینطوری هست خیلی خوب شما برو در آذربایجان ببین قدیم ترین این ها یا سند ازدواج هایی چه تارید که بوده؟ وقت محتاجه میشه که قدیم تر 182 سال پیش چنین مثلا نمایه های پیوند اجتماعی وجود نداره چطور ممکنه کلیه سرزمینی که شما این همه ادعا راجبش میکنید مثلا ازدواجشون های ازدواجشون 182 ساله باشه اینا کار سخت نیست شما اگر با میلیت فالت با چیز وارد این تحقیقات بشید همون در دو سه قدم اول خانه میشید که بهتون دروغ در اینجا برمی کنیم به کسایی که این دروغه رو احتمالا ساختن احتمالا من از نظر خودم میگم تا شیکاگو با قول شما کمبریج موزه های کنیسه کلیسا. اینا چرا از این به بعد یا تا حالا تحصیل گذاشتم توی تاریخ و حوییت کلا مناطق جهان همونقدر که میبینید دیگه مثلا یعنی نظر شما در حال اروپا هم تاریخ نویسی که امر جدیده شما یادشتای قلم رو خوندی یادشتای رو میخونی کافو داری میخونند کافو داری اتون وقت نمیتونید که درست سوال بدید یا قالوا انا درست صحبیه نشه دنبال چی می‌گردید در این مصاحبه دنبال واقعیت چون خیلی عالی این که الان شما ما و تجربه بر جواب اندادید این سوالا بر خود من و بعضی از اون همراهای من واقعا بوده چرا این جوابهایی که قبلا داده شده جواب در جواب نبوده دیگه مثلا یه نمونهش همون نوشته بود که فرض کنید توی اون هر هرآش که اون بند خدایی که تازگیام مرحوم شد نوشته بود که تو شاهنامه می که طرف از این برای ایران تا اون ور ایران یه شب میره با هم متحد میشن لشکرشون شب بعد میاد به ایران حمله میکنن این جور چیزا با ترجمه با... ما الانش این کار رو نمیتونیم تصور کنیم حالا ایران اون ما خیلی بزرگ بوده اینان شامات این بر بوده مثلا توران اون ور بوده شام این ور توران و بر... یعنی جمع شدن لشکر با اون امکانات اون زمان در, ما ده در مورد فردوسی در این یاد که عرضه شده به این شکلی که شما دنبالش شدید نیست ما میگیم که هر کسی که ادعای داشتن یک نوشته ای رو داره این باید بتونه درباره نوشته خودش به پنج سال جواب مستقیم بده یک در چه زمانی این نوشته شده دو با چه خط و زبانی نوشته شده؟ سه بر چی نوشته شده؟ چهار با چی نوشته شده؟ و پنج آیا از این نوشته ای مورد ادعای شما به یک کف دست باقی مونده که ما او رو ببینیم؟ این پنش سواله هیچ هیچ هیچ ادعایی در مورد داستان فرهنگ کتابت و کتاب قادر نیست به این سوالات جواب پانه کننده بده مگر قرآن قرآن میتونه به همه این پنش سوال جواب کننده بده ولی این بحث ما از اونجا که بنیانی افتقا از که فردوسی شاهنوه شو با چی نوشته شما جواب نده برچی چی نوشته با جواب نده با چه خط تو زبانی باز بازم جواب ندهید چون در زمان فردوسی چون این خطی که ما الان به کار یا فردوسی به کار برده ملهمه خط عربه علف و ب و جم و دار و زار این حرف داره. درسته؟ مانه. پس اگر ما در زمان فردوسی به اسناد نوشته شده عرب رو مراجعه کنیم ایشون موشون امتونید بخونید برای اینکه نه نقطه داره نه زیرز برد بد کاف و واب و کاف و نون و یه به چون ابزاری که اونها برای نوشتن داشتن توان نوشتنی یک یه صحیح را که هشت قوس رازم داره و نازک و میشه نداشته چون قلم نبوده پس اگر عرب هنوز خطی نداره که بتوان به راحتی خوند چجوری و با چه خطی فردوسی که باید ثبر کنه خط عرب کامل بشه بعد اونو ورداره چهار تا اضافه بکنه و بد این حاله شد فارسی با چی نوشته با چی نوشته با کدوم خط زبان نوشته و آیا این و نمونه بیداری هم داره ما دیگه دنبال نمیدیم که مثلا این اصبی که مثلا رستم سوار شده نمیتونسته به اون تندی بره یا اصلا رستن یا فردوسی کیه این مباحث کنانه مباحث شما فنیه مباحث شما در همین سطح افتداییش هم نمیتونه جواب بده یعنی من میگم که وقتی یه شبه نمیتونسته پس این اصلا نوشته خود کار درستار میره با چی نوشته با چی نوشته بر چی نوشته آخه شما که مثلا فردوسی ها فردوسی نوشته شاهنامه نوشته خیل خوب اون نمی در زمان او خطی برای نوشتن نبوده که اون چیزی رو نوشته باشه و تازه یه کتابی به این قوس رو اگر نوشته حالا اینو چیکار میکنه میزن صندوق خودش یا میشینه 20 دیگر روش میدونه میفرسته به مراتب فرنگی که اگر او قرار باشه بیستتا از این فراهم کنه که بدبخت وسط کار مرقوم شده رفته که از بنیان غذایا حریفت کن نه از سطح عوام وقتی ما خط نداریم دیگه لازم نیست یکی یکی بگی پس این کتاب چی؟ پس, کتاب چی پس اون کتاب چی پس اون کتاب چی ما خط نداریم که کسی باش کتاب بنویسه ابزار نوشتن نداریم ایناست اساس یک کلان وقتی به شما میگید که کارم سرا ندارید بازار ندارید منظورش اینست که تولید ندارید و توضیح ندارید. این که دیگه دوم اصلا نمیشه گفت پس, پس این چیز جالده عبریشم چیه؟ جالده عبریشم دروغ مشه دیگه وقتی شما هیچ کارمسرانی ندارید و این عبریشم هایی که اینواری مورد میکردن زیر بارون کجا واضرتش میکردن این هم مسئله کلانه باید با گفتگوی کلان توضیح داده بشه خست تو نوشته و حالا کلا کتابت در خارج از ایران بوده؟ هیچ کجا نبوده تورات و انجل اینا این اینطوره برونید وقتی من میگم که جز قرآن هیچ نوشته دیگه نمیتونه به سوالات اصلی بخشش جواب بده یعنی نمیتونه بگه با چی نوشته یا با چی نوشته تنها سندی که همینه این پنشت سوال میتونه جواب بده قرآن چون قرآن از قرن اول با همون خط خرچنگ واقع عرب نوشته شده به نمونهش هست شما نمیتونی اون قرآن رو بکنی ولی باز هم نوشتن قرن دومش هم هست قرن سومش هم هست قرن چهارمش هست قرن پنجمش هم و مهمتر از همه از نظر محقق اینه که اون قرآن قرن اول اگر ده تا آیه از سوره بقره توشه در قرن نهم همه اگر بازی شما یه پوست نوشته دارید که ده... همون ده تا آیتوش نوشته شده باشه مثل ما قرن اولی باین قرن نهامی یک یه دونه واق کم زیاد نیست اینجا یه سوال دیت کننده هست اگه طورات هم زیادیت نوشته شده آره. این وضعیت قرآنه که میتونه از خودش خدمت خودش وجود خودش دفعه هم. حالا شما میرید پیش خاخان یا میرید پیش کشیش میگید قدیمترین تورات و انجیل تو مالی که ما 400 ساله میگید قبل از این که کنی کنی رو ما قبل از این رو محلوم خودشون میگن معدوم کردیم برای چی معدوم کردن؟ چون این متن تورات جدید نوشته 400 ساله نباید با یه تورات دیگه ای که 800 ساله پیش نوشتن در تضاد میفته فقط اون چیزی رو که از قدیم در اختیار داشتن نابود می‌کنه این نوشته جدید رو زنده سرجاش که بی‌خطر نره. حالا من منظورم این بود که نوشته بوده قبل از مثلا 700 سال پیش یا نوشته الان اخیراً نشه، برجستان اخیراً خب پس مثلا صورت 800 سال پیش که این نوشته شده بوده. الان شما هستید. شما تو قلم نبستید. ببینید، قضا هم من گفتم که شما هر نوشته‌ای رو که ادعاشو می‌کنید باید بتونه به این پنج و سال اولیه جواب بده که با در چه زمانی نوشته شده با چه خط و زبانی نوشته شده با چه وسیله و ابزاری نوشته شده بر چی نوشته شده و آیا نمونه داره این اورژینال شما یا نه حالا یا نمونه تیکه کوچیک کوچیکمه باشه کافیه تنها, تنها سند تاریخی جهان که میتواند به همه این جواب بده و حضور خودشو از 1400 سال پیش به عنوان سند ثباتی مسلمانان با خداوند یعنی قرآن رو عرضه کنه قرآنه و یعنی بقیه نوشته های بشری 500 سال بشتر عمونه مثلا شما اکی برید تو کلیسا یا کنیسه و خواهان دورات قدیم بشید یا انجینر قدیم بشید به شما میگن که قدیم تر از این چیزی در اختیار ما نیست وقتی میگی چرا میگن خب ما وقتی متنو جدید میکنیم قدیمیه رو نابود میکنیم نیستون این مثلا میگیم باز چرا میگن که قراره که اصلاً نمونهی مقابله وجود نداشته باشه چون نمیدونن میدونن اگر یه چنین تورات هایی رو اولا که تورات نویسی چیزی نبوده که در سیاره باشه یک نسخه تورات مثلا کلیسه داشته یا یک نسخه از انجیل کلیسه داشته اون چیزی نبوده که در دست مردم بچرسه مثل کتاب امروز بلکه اون در جایی نگه داشته می شود. در صندوق، اینا رو همه من با مراجعه به گفتهای خودشون میگم. در یه صندوق به منامه تابوت عهد یا صندوق عهد نگه داشته می شود. ظاهرن خاخام یا تشیش از اون متن اون استفاده می کردن. اون خاخام و تشیشه که در کنیسه و تدیسه میگه در طورات اینجوری درشته شده. مردم و عادی اصلا آشنایی با نوشتن ندارن. چون در جهان اطرافشون کسی قلم نمیشناسه چیه. وسیله دیگری که روش بشه نیست. میگیم که این یه نمونه مثل رومه. این نمونه مال یونانه این مال مصر این مال بین النهرینه این مال ترکیه این مال ایرانه این مال هنده این مال چینه تمام این نمونه ها کاملا ما رو آنه میکنه که کتابت تا زمان ظهور مسیح فقط بر سنگ و با قلم و چکش میسر بوده یعنی امپراتوران بر سنگ نوشتن چه اون روزه دنیا چه برای دنیا یعنی شما قبل از مسیح قبل دوزار سال پیش هیچ نوع وسیله دیگر یا مواد دیگری جز قلم و چکش برای نوشتن اختیار بشر نبوده بجز بینو نحه که چون کوه و سنگ نبوده اما رسوگات زمین در اطراف دجل و بوده نوشته هاشون رو به جای سنگ به گل نوشتن باید خود این نشون میده که جز نوشتار برگل یا برسنگ امکان انتقال هیچ اندیشه ای به اون دیگری نبوده خب باید این وسط چجوری ما قبول کنیم که هرودوت یه تاریخ شیست سفه نوشته اگر قرار روش هرودوت هم مثل امپراتور روم حرفشو رو برسنگ نیسته باید ما حالا یه کوه میداشتیم که دور تا اشتران شده بودن و تاریخ ایرادات رو بود. همچی چیزی نزید پس این دروغ دوران قبل از مسیح دور... مثلا خود خداون خداوند میگم ده و بر سنگ نوشته دارم تنها امکان نگارش در اختیار بشر قلم و چکش و بر صفحه سنگ نوشته بوده خب چجوری شما میگه افلاتون کتاب جمهور شما تقدیم کرده سنانی؟ چه کتابی با چی نوشته بر چی نوشته هیچکسی کسی جواب می پس ما دنبال کلمات دنبال خوردکاری حرکت نمیکنیم. میگیم قبل از مسیح اصلا امکان نوشتن جوی نبوده پس ما نواریم تمام کتابهایی که ادام کنید مواردخیان یونانی یا هر کسی دیگه نوشته بریزید دور چون امکان به وجود آوردن کتاب نبوده اگر شما برای ما در اون زمان مثلا نقش بردارانی رو معرفی میکنید که نقشه جهانو کشیدن و اصلاح هم توش خیلید کردن ما میداریم که یه مرکزی مشغول توطه چینی و جعله. به بنیان و امور توجه کنید پیش از مسیح جز بستنی نمیتوانستن به نمیستن. یا رو هر مقامی داشته فقط باید بر سنگ می نوشته یا بر گلد در بین او نفر پس ما زیر باره این که این آقا فلسطفه وقته اون آقا بنیانگوزار حکمت بوده اون یکی تاریخ اینو همش تشک میشه بدون اینکه که ورود مستقیم داشته باشیم از طریق کنکاش در مورد ابزار نوشتن و وسیله که برش نوشتن ممکن بوده میگیم اینا همش باطله اینا ادعای غیر ممکنه تموم شد ما از شر یک مشکتاب کتاب مزاهم که به ما قبل به دوران مسیر اشاره میکنه راحت شدیم. این دیگه این بحث تموم میکنه که فلسفه و هایی بوده این را اینا سرانه این تو از کجا وقتی وسیله نوشتن نبوده بدرست همین سیر را ادامه میدید و میگیم این که خط عرب شما کتاب پاپیروست ها رو دیدیم مغله پاپیروست نخوندن آه خب اون مقدمه این کتابه اگر شما مثلا کنید که خط عرب قرن اولو خط عرب قرن هفته اون رو کنارم یه سر موی تفاوت نداره همش مویه خطه چون هنوز ابزار نگارش درست به خط عرب رو پیدا نکردن از زمانی که قلم نی پیدا میشه و میفهمند این گراه را میتونم بتراشند و به صورت یه ابزاری برای نوشتن درارند که در مقابل فشار در مقاومتش کافی باشه بتونه قوسها و گردشها در آره و فلان این حرفا امکانات نوشتن صحیح را به وجود میاره و شما ببینید ا تابلو خط عرب پیدا شد تا دیروز به خط خرشنگ غورواقع بود از زمان پیدایش این مثلا قلم نی ووخت شما ببینید همه چیز قابل نوشتنه از اون موقع ووخت شما میتونید کتاب داشته باشید که این موقع سیصد و سال پیشه این هر ورودیهای کلان به این مباحثه نه اینکه بنده مثلا فرض کنید که شبا چجوری میخوابم یا چی میخورم یا چند کیلو هم میرفا اگر کسی بیرون از این مباعث کلان به شما سوال داد کاری <تصفيق> بشترش داشت نمیدونم چون من خدا هم دار می‌کنم، من در حوزه این کاری که انجام دادم و کاری است که تمام به فرهنگ جهان رو من مدیونه فرق نمی‌کنه چینیه یا ایتالیایی ایتالیاییه همه فرهنگ جهان رو من مدیونه این روزی به وسیله همین انسان اعتراف میشه که آغاز نگاه صحیح به مسائل بنیانی زندگی جمعی از نوشته های شروع میشه این قطعی مولای دردش نبره به همین دلیل که جهودی ها فرمان رسمی دادن صادر کردن که به نوشته های من کسی پاسخ نمیسته این نگیره به ببریدش در فرماسیون سکوت. این سکوتی که ده سال پیش پس از کتاب اول من اخوامانشیان، شورای جهانی یهود یه صادر کرد، با دقت بسیار جمهوری اسلامی رعایت میشه. یعنی حتی یه نشریه نگفته که یک مستندی به نام تهگانیچ ساخته شده. نمیگم ادش دفاع کنه، اصل اطلاع رسانی در مورد کارهایی که در این محدوده بنده انجام شده نوشته شده هیچکس کس ساده هم نمیکنه. برای اینکه شما بفهمید چقدر بدبخ شدن شما از همین پاساش برید بیرون تا هر کجای که کتاب فروشه یکی یکی, یکی باره بگید ما من کتاب های پور بیره رو می با شما برخور یا رو کتاب فروش ها به مشتری میگه شما این آشقال ها رو بر چی می این ذلت بارترین موضعی که در تاریخ پیدایش روشنبتی ایران یعنی سال ساله تا کنون بهش دوچار شده این ذلت فرهنگی برخورد با تعلیفات من از ذلت سیاسی که اونها بارها و بارها دوچار شدن بسیار امیستره یعنی اینها در آینده مورد هم از با خواهند شد. پس از مبانی حرکت کنیم من فکر برای اونی یه ساعت یه گذاشته سرد باری نفت رو تکرار کرد از مبانی حرکت کنید کاری به روبنای به عمومی نداشته باشید کاری به حرفهای خال زنکانه نداشته باشیم برای شما باید این قضیه محرد بشه یا نشه که فولیم اتفاق افتاده یا نه شت از کی به وجود اومده ابزار نوشتن از چه زمانی پیدا شده در شهر یا غرب و غیره بره شما اگر در تاریخ بهتون برس برس گفتم که جنگ های فلان فیرانه ارپای اینا میتونید قاطعانه بگید که این دروبه رو از چی میسازید چون اطلاعات که در مورد جنگ های صدیبی تا کنون که نه همش خنده داره من یه هفهشتر افتا یاد داشتم گروشتم کردم اطلاعات و در جنگ های صدیبی بنابراین باز هم تکرار میکنم از عمده و چلان حرکت بکنید تا تکلیبتون معلوم شه و مجبور نباشید مثلا بگید که خوب اگر خط نبوده پس نهتون بلاقصی میشه من چه می‌دارم چی می‌شه؟ اگه خط هم مثل مثلا شاهنامه‌الفرس استاد یکی از اصطناده‌های خیلی محکم شما در مورد همون پوریم برمی‌گرده هم به خود داستان استر تورات درسته؟ از در درست کناس همون دید یعنی ما کتابی که تورات باشه قبل از مثلا 400-900-700 پیش نداشتیم با. از این ممکنه اصلا وجود نداشته باشه محضرت پوریم ممکنه اصلا وجود نداشته باشه نه نه ایتونید دیگه بگیه چون این پول مخاره به اون بره این... نه 15 تا دلیل ما در یاد داشته و عرضه کردیم که اثباتیه در مورد وقوع پرین. اما اینی که توراتی که در اختیار ماسیه که متن جدیده یکی برژن جدیده اون هم قابل اثباته دارد میکنه بنابراین اون مطلبی که ما نوشتیم به عنوان ادله بروز پرین یکی از پونزفت اینه که در تورات هم این قتل هم ذکر شده ولی اونو سند نگرفتیم وقت دلیل دیگه آوردیم در استحقام این مطلب که اینجا یک قتل هم صورت گرفته به برشی که انسان نسلش از این میانه شده آه. این مروس برشیده شده نسل این فرمول رشد جمعیت خاطر صور نسل دیگه چنده مقال نمیشته بودید و منم خیلی علاقه بشتان بهش که در هر سی سال آماری که شما گرفته بودید در هر سال دو برامه شده 100 صد رشد جمعیت بوده این رشد جمعیت رو بر اساس ما که حرکت کرده بودیم رسیدیم نزدیک هزار سال پیش اینا که دیگه جمعیت به صفر میرسیده 400 سال 400 سال. حالا با این فرمولی که من از طریق ریاضی این فرمول‌ها ریاضی مخصوص به خودمون هست دیگه به هزار سال رسیده بود. حالا برنامه شما اون آمار شما ببینید. اگه الان 70 میلیونیم چجوری به هزار سال پیشه؟ قبل از الان 35 بودیم در 1738 18 میلیون بودیم در من این فرمولی که با نمای طبیعی رسته بودن به صورت لغاریتمی بود بعد از اون طریق اونطور طور دیگه نهایتش میرسید به هزار سال پیش که جمعیت به صرف میرسید باز با بحث شما هم برمیگرده به 400 سال پیش با قول موتنشو فرمودید این ارتباط رو میتونید بدید صرف شدن جمعیت و با فوری مواحصی که ارائه کردید می‌دین دو تا بحث در مورد جمعیت شناسی بنده گشوده. کسی ببخشید مثلا کسی هم دنبال این راست که این بحثو مم... به من اطلاعی نداد که رفتن یعنی زن‌ها نشدن کسانی رفتوار شد. باز آم... کسی به من نگفت که من دنبال این رفتن به این نچ رسیدم. واقعاً این مسئله اثواتیش اثبات این موضوع جمعیت بسیار ساده است یعنی نگاهی به خود کره زمین و آدم‌های توش شما در اواهد قرن بیستم یک میلیارد خورده ای آدم دارید در آخر اون قرن هفت میلیارد دارید این که کارش نمیتونید بکنید این که شما هفت میلیارد دارید در آخر قرن بیستم، درست این فرموله یک میلیارد خورده ای در ابتدای 1900 یعنی 1900 تا ۱۹۰۰ بگرد بعد 1932 برابر شده شده دو خورده ای 1962 برابر شده شده چهار خورده ای از 1960 این برم چیز مورده حق میگار شده یعنی چون در این دوران اخیر دو جنگ خیلی بزرگ رخ داد که 100 مدیون یا شایدم 200 میلیون آدم از گرگونه زاد و برد کنار و پیدایش به نقاط کره تجمع انسانی در کره زمین یعنی قاره آفریقا قاره آمریکا، قاره شمالی و جنوبی، پراکندگی انسان را به وجود آورد که اموال آخرین مرحله این 5 سال اینوری برای فقط این بدون هیچ چونه زدنی ثابت می‌کنه که انسان در حس 33 سال یا 35 سال اکثر تواراوار میشه خب خیلی اعتراض کنه چیزی ممکن نیست شاید چون بیماری ها هست قهطی ها هست که از خیلی بگم بگن قهطی کجا بوده بیماری کجا بوده این حرفا ولی بهشون جواب داده شد که بله درست بیماری و قهطی رو لاید نکردن بهدار شد مرگ بچه ها و حرفا یک واقعیت ولی این هم واقعیته که عقل عمومی با دانستن اینکه این بچه ها نمی مانند به جایی که دوتا بذارد مثل حالا و همون دوتا باقی بمونن ده تا که دوتاشو شد باقی پس این تشدیر اون دوتا در هر دو صبحان فروسه یکیه یعنی چقدر اینکه حالا این فروسه دوباره بر شدن برداره بود با اینهای من از یک مسیر دیگه ای در چیز در مقابله با اینکه انسان مثلا فرض کنید که زایات هم داره با بیماری و نمیدونم گروسنگی و قهطی همی هم پردن ازا گرفت گفتم با اصلا در 2500 سال پیش همه کره زمین به سرا چیز ست هزاست جمعیت داشت. فرض رو بره میسه. که تمام کره زمین در 2500 سال پیش ست هزار نفر داشته این نمیشه گفت نه نه و گفتیم که اگر این صد هزار نفر نه سی سال یکبار، نه حتی پنجاه سال یکبار، بار هر صد سال یک بار دو برابر میشدن یعنی در دو هزار و تاریخ دو هزار سال قبل مساویس با صد هزار نفر بوده در دو هزار شدن دویست هزار نفر 2670 400 میلیون نفر همینا پی کردیم که دیگه کسی نمیتونه زیرش بزنه که نه 30 بار بار. 100 سال بار دوبار. میگیم 100 سال یه بار دوباره برشه. اون وقت میدونید در 2010 به چهل دلی میرسید. فکر کنم نزدیک 100 میلیارد هم بیشتر شده بود. نه. این عدد اگر اشتباه نکنم 1670 تریلیارد نفر نه میلیارد 1670 تریلیارد نفر آدم با در زنید باشه در حال که 7 میلیارده یعنی یک هزارم اون چیزی که باید باشه نیست چرا؟ خب این ارتباط شما قرار بود بدید دیگه؟ نه ما سوال میکنیم که راجع به این قضایی ها باید فکر کرد که اگر انسان از 2000 سال پیش، 2500 سال پیش، بر فرض اینکه در تمام قاره زمین 100 هزار نفر بوده و با فرض اینکه هر سال یک بار دوباره باشن، اینک شما 1600 فلان مقدار کم بدی دادم. تریلیون و نه میلیارد یعنی هزار میلیارد این جواب لازم دارند. اگر شما نتونید به این موضوع جواب بدید هر کنکاش دیگهای در موضوع انسانی باطل میشه چون اصلا نمیدونید که چی به سر ما اومده چی به سر انسان اومده در طول همین مدتی که شما فکر میکنید تقدم بسران بالغ شده و همیگیر شده و همینجا نشانه های بسران رشد انسانی قابل نیداره جواب وجود نداره چون شما دنبال یه میلیارد آدم نمیگردید دنبال 1614 میلیارد آدم و عدد قولاس های غیرقابل تکرار داره پس اینا است که اهلش متوجه که که حرف بیخودی نوازد بعد افتادا مکس کرد کاملا خود را قانه کرد که این مسئله به این شکل قابل دفاع بعد از اندام کرد اگر آدم احمد عوضی ما یکی هم داریم که ظاهران استاد دانشگاه اسمش هم هست یه سایت هم داره این بچه از نظر فرد چون بچه می. مثلا میگه که چجوری تو جورت میکنی شخصیت والای اسلام سلمان فارسی را حัص کنی این کار گناه داره اصورم مظهر گفتم کنیれる که شد این همین جوری براش تو روزنامه چیزی هم که اول مطلب رو چاپ کرده چاپ شد این ادا اطورای بچگانه در این مباحث تازه تر شده هیچ جایی نداره آقای باید تکلیفشون لو با ارقام و اسناد موجود روشن کنن یعنی شما آخرین مقاله که من نوشتم دیویس و که هیچ سلسده به نام حکاملشیان هرگز در ایران نبوده یعنی کروش دروغه داریوش دروغه عردشیر دروغه این قصه ها رو برای اهمیت بخشیدن به تورات نوشتند شین ها رو قبول داره. وقتی توراز میگه اردشیر پس اونا در تاریخ خودی اردشیر معرفی کنن که توراز زیر سوال نره. خب آخه شما به همین اسامی استناد کردید توی مدرسه پورین نبوده خب قبول کنیم نبوده. خب پس این کسایی که شما میگید که اومده این قتل ها انجام دادن بعد رفتن مثلا یهودی‌ها رو آزاد کردن بعد به یهودی‌ها خدمت رسانی کردن اینم یه جوری بله میگه اینا همه عوض میشه یعنی ما دلیل داریم برای همه اینا دلیل داره یعنی میگیم که این مطالبی رو که گرداگرد گرده کتیبه بی نوشتید همش جهده و تازه کرده شده اولین ثابت میکنیم میکنی. وقتی ثابت کردیم که این نوشته ها جعل جدیده جدید یعنی دیوی سالت پیش مثلا نوشتیم اونگاه میگیم پس یه سری نقوش باقی مونده که اینا کهنه است به جدید نیست. این چیه وقت پاسخون رو داریم بعد میگیم که هم این نقوش که در, در نقش رستم هم نقوش نقش رستم همین نقوش بی ستون هم اون چیزی که در تحت جمشید هست همش غیر بومیه یعنی شما یه جرز در اسطل های سیاه بابل دارید که روش داره مثلا یه سلطان از این جرز عبور میکنه دو نفر چتر وال سرش گرفتن این در بابل عین همین نقش بی کمترین تغییر در تخت جمشیدم هست در بابل اون اسسفنسا هست در تخت جمشیدم دو و چهارو شیشتش س نه دو بشن. بعد سایر نمایه های معماری هم که در تخت جمشید هست ابتدار در که دیده شده دارم. اثبات هم میکنیم که کتیبه هایی که در تخت جمشید موجوده جعل جدیده یعنی همه رو جدید کردن. این به این معناست که اولا که اسامی مندرج در تورات یه عینیت بیرونی هم پیدا بکنید، بعد هم به وقتی هرکی را هضم میکنیم اون وقت به این نتیجه میرسیم که اینجا که یه محیط بابلیه، درآمد کنیم. هر جا رو نگاه میکنیم یه اثر بابلی اونجا فراریه. بدین ترتیب ما می‌گیم که پس یک مرکز معماری بین النهرینی رو ازش سوء استفاده کردن. و با کندن کتیبه وارد امکانات مردم ایران در میکنیم و اون محبته رو اسم تخت جمشید روش گذاشتن هیچ کدوم اینا اسناد قدیم نداره و است که در دیوی سال اخیر افتاده مثل بقیه موارد بنابراین میگیم این بیستون بدون کتیبه یک نقش واقعیست میگن چرا میگیم عین این اونجام هست یعنی همین اسیرایی که گردنشون کنا و همین آدمی که این به سر پاشون سینه ای یعنی 90 کمانش در منطقه پولزها هم هست بعد میگیم که شما داریوشو چه جوری پیدا کردید جز اینکه با خواندن این م... چیز مثلا سطور اول یه نفری که نمیدونیم چیه میگه من اون داریوش چون اون میگه منم داریوش و اون بگید داریوش مثلا بعد از فران اون اومد و از اون اومد و از وقتا جالتا اینی که میگه پارسی پسر پارسی و پس پارس هم افترار شد بیگه معنوم شد قوم پارسی هم از که از اون زمان چیز بودن حاکم بودن بهتر میکنیم با آریایی پسر آریایی خب یا درستش کن دیگه هیچ دلیلی لازم نداره چون اون گفته و اینها نوشتن یا با قول داریوش نوشته میگه منم حالا میریم سر قبر داریوش اینه همین کلمات اونجاست دونجاست میگه خب اولا اینجا میگه نگو منم داریوش شاه تو تو من داریوش شاه شاه ها بودم و دیگه هر انظاری پیدا که همه متن‌ها مسخره، کودکانه و بدون استناد برای امکان بیرون کشیدن مدارک تاریخی ازش. مثلا فرض کنید اینا کتیبه 20 تون رو پیدا کردن، درست؟ حالا این فرض و همش رو فرض میکنیم بر مبنای اسناد جعلی. بعد میگن که پس ثانونی من باز خلاصه می کنم مطالبو میگم که شما از مبانی خارج بکنید دنبال خوزه کاری یا تعیین تکلیف با این کتاب بعد نوبت اون کتاب میشه بعد نوبت اون که با اونها تعیین تکلیف نکنید دنبال این باشید که آره واقعا خط در محمد در اصول تو هزار سال پیش برای کتاب نویسی به زبان عرب وجود داشته یا نه؟ آیا قدیمترین تورات امروز رو میشه به عنوان سند قبول کرد یا نه؟ طبیعی است که اینها سوال است که آدم از بند ناباوری خلاص میکنه یعنی شما وقتی به این نقطه رسیدی که اینجا در منطقه ما پس از پوریم تا ناصر نیشاه زمان ما هیچ نوع نمایه زندگی متمدنانه جمعی نیست این بار بزرگی رو از شما بر میداره و هرکی خاص راجع به این دوران صحبت بکنه شما خیلی سازه میتونی که اول وجود انسان در این محوطه رو یه نمایه اصفاتی به ازش معرفی کن بعد وارد حوزه فرهنگی همون محوطه رو و به نظرم که شما باید یکی دو تا نمونه رو انتخاب کنی از نمونه این مسائل و شروع کنی راجبش تحقیقات و تشنگاری نوشتن اینکه آیا شیراز پیش از دویس سال پیش وجود داشته یا نه همین همین میشه یک نمونه یا معیار به صورت تحقیق چون این که ما میگیم تختی جمشی نیمه ساخته این تازه ورود به مسئله در انتهای خروجیش میکرسیم اگر حالا کاملا معلوم شد که اینجا هرگز مسکونی نبوده پس کی به ما گفته که اینجا جشن های صده بونه نوروز رو این می میگرسدن هدفش از این دروغ به این بزرگی چی بوده اگر اینجا یه محوطه سنگینی به تمامه چجوری ممکنه اسکندر اونجا رو ساده باشه وقتی بخی... وقتی تازه ورودیه مثلا شما اثبات میکنید خروجیش اسمه گردن کنفتره یعنی این دشمنان دروغ پرداز برای ما اولایی اینکه کیان دوباره چه منافعی در پرداخت این دروغ ها داشتن الان با حسابی که در مورد جمعیت کردیم شما مثلا که تا چارسر سال پیش سرف بوده یا و... حالا بگیم مثلا هزار سال پیش سرف بوده و... این مربوط به محصف پیامبره که نمیشه هزار داره هزارو قدی اومده بوده بعد بعد از اون اتفاق افتاده که کشتار و قاصلاهم کل کره زمین اتفاق افتاده نه دیگه زمان قاص کل کره زمین کره زمین چه مال کل کره زمین مال خالد از غنیونه است از اینجا جمعیت بوده درست شما فکر می‌کنید 2500 سال پیش کلا زمین نظریه پردازیه که با اون آمار معرفی میشه همش فرضه یعنی میگیم اگر فرض کنیم که در 2500 سال پیش جمعیت جهان به سرا 100 نفر بوده و هر 100 سال این 100 هزار نفر رو دو کنی باز الان که ببین با هم صحبت میکنیم تریلیارد ها انسان کم دارید توضیح اینکه چرا کم داریم چیه چون نمیتونیم بگیم انسان یاد و راد متوقف کرده چون یه چیز غیر طبیعی میشه. جوامه انسانی حتما همراه با تودید و بلد انسانی است. زیرا جز خواست موجود در جوامه اینه که مردم با هم ازدواج کنن و حاصل هر ازدواجی تودید مثل باشه. شما تودید مثل نمیتونی حرص کنید. شما اگه تودید مثل کردید یعنی انسان رو حرص کردی. اینا هایی است که پیشنهاد میده شما باید راجع به موضوع فکر کنی تا زمانی که خود قانع نکردی که چرا انقدر ما جمعیت جهان کمه اون وقت شما نمیتونید کاملا به بوتون وزایی وارد چی اول سالات را یه نوعی باش برخورد کن بعد وقت اظهار نظر یا نظریه پردازی بفرد. مازم در مورد توفنگو که پشمال قبلش یک بحثی داشتی در مورد چند تا در قرآن آدم بشر انسان ناس فهمونی که من اینا با هم بیگه بر میکنه بحث باز نکنه ولی معتقدم که این ها با هم فرق دارن. همه یک موجود نیستن و یک بحث کلان نمیدونم فکرم سی ست تا یادتش هر منظورش اینه مثلا یه آدمی یه فردی به اسم من یکی از این چهار تام بله هر کسی یکی از این چهار تاست و تکالیفشونو فهم کنه نه تواناییاشو فهم. و طوفان 9 رو واسه من بگم که اون فیلمی که تایید شده بود در معرفی نظریه شما بود در مورد طوفان نو خیلی جالب بود مکانش رو مشخص کرده بودید آثارش رو نشون داده بودیم اواقع بشم گستم که چی بوده توضیح بیشتری در موردش البته نتایی که در موقع, موقع مفلطی بگیرید بعدش در کاری چی بود اونجا بیش از هر چیزی من نظر به این داشتم که اون چیزی که قرآن به عنوان طوفان نوح مطرح میکنه درسته نه اون چیزی که او توورات و انجیل مطرح میکنن توورات و انجیل مدعی که تمام جهان در اثر این طوفان رفت و خیلی با سراعت میگه هیچ موجودی هم از چنده پرنده پشه و اونه پشه هم میره زنده نمان در روی همه قرد شدن نابود شدن را رفت در البته به جوز اون کشتی و سرمشینا خب ما اولا یه خود میخندیم میگیم به چجوری همه موجودات نابود شدن در اثر توفان ماهی که در توفان نابود نمیشه خرچنگ هم نمیشه امیدونم فرزم بالون هم نمیشه پس اولا این تز شما که همه نابود شدن پایش میلکه چون هر موجوداتی که تو آب زندگی میکنن نه تنها نابود نشون بسید شدن میزان آب زیاد بعدا میگیم که خب این که شما میفرمایید که افتفاع آب در سراتل کورلیزمی از 80 تا 10 زر بالاتر رفت این به این معناست که شما مثلا فقط 10 زر نه تمام ابل استری مالیار زیر آب میبرید 10 زرم از گوله ابل است بالاتر خب وقتی جوری این آبها تخفیف شده در چه مدتی اولا کجا است آب مثلا کجا رفته چون که بخار شد که باید دواته برگرده به زمین دیگه این منو از اون بابت راز نگه که, که نقل قرآن از طوفان را کاملا برگسته میکرد و این میتونست بگه که اظهار نظرهای قرآن در مسائل مربوط به منطقه ای ما یا به طور کلی مسائل اخلاقی کاملاً اورژیناله او تحت تأثیر هیچ چیزی مطالب رو عوض نمیکنه. خب وقتی او میگه یه قوم نوح این مورد قضا به خداواقه شنن و در نتیجه خداوند یه نفر رو از میمان اونها معمور که کشتی بسازه و خودشو، خانوادهشو برسی از زوجه های یعنی خیوانی اطرافشو نجات بده این تصویری که در قرآن از طوفان نوح داده میشه خیلی نه خیلی کاملا به حقیقت مسائل پیش آمده نزدیکتر است تا اون تصویری که تورات انجیب میدن بیشترین هدف من این بود که به صلاح مثلا هم یه تا دو سال پیش از یه مسلمان معتقد هم میپرسدید ماجرای طوفان نوح چیه؟ قرآن پر از این قصه ها میرفت در لذیف قصه ها حوییت میخورد و تیچ میخورد ولی حالا معلوم شد که نه یه واقعیت رخ داده است درست به همون شطر قرآن میگه تاریخش بود. کی بوده؟ یه کسی نمیتونه تاریخ تعین کنه یعنی بعد از حضرت موسی بوده؟ نه اون که درزان نوه است یعنی زمان حضرت عیسی، حضرت موسی و هنوز قسمت ترکیه زیر آب بوده. تا 500 سال پیش که بوده چون خیلی ساده است. شما در منطقه آب آثار حیات انسانی پیدا نمی‌کنید. تا همین امروز که ما داریم با هم صحبت می‌کنیم. 300 سال پیش سنگ بنای آنکارا رو جازه گذاشتن. یعنی تا اون موقع اونجا هنوز قابل استفاده بشری به عنوان مرکز تجمع نبوده مضاف بر این هنوز در ترکیه شما در دربه ها آب طوفان را پیدا میکنید به شکل دریاچه های نمک وسط کوه که درچه نمک آب دریاچه های شده در پستی بلندی های همش یا از مستقیما از باران و آب شدن برف مایه میگیره یا از چشمه های زیرزمینی رئیسمون میتونه شور باشن که ولی برعکس در تمام ترکیه شرقی هر چی دریاچه وجود داره بالا نمک خب این نمیتونه شور باشه موقع طوفان این شوریش از کجا اومده نه این چوری به خاطر نیست که یک اقیانوس تخیر شده خب همین رو میگم تو اون این نمک از کجا اومده بوده چون داخل اون چهار دیواریه دیگه چهار دیواری ترکیه چهار دیواری ترکیه آیا به صدا چیز نداره آبش املاح نداره یعنی آبی که چشم میاد بیرون احتمالاً ممکنه یک دگر هزارش نمک باشه خب این آب اگر شما تبدیل کردی به یک سطح بزرگ پس این سطح بزرگ مقدار زیادی نمک خاطی آب داره وقتی این آب ها بخار میشه هی اون نمجه قلیزتر میشه همون خصوصیاتی که اولا شما تو وانم میبینید مثلا. همون خصوصیاتی که تو در, در دریاچه ارومیه هم میبینید همون خصوصیاتی که در دریاچه های قسمت شما لعراق میبینید اینا کاملا خوبیت یکسان دارن منطقه اگر خدا بخواد باید که من این توفانه نوخ را هرفهی ترش کنم یعنی پشم برم ترکیه و یه مستندی نزدیک یه مستندی دیگه بساسم ولی میاند از خرش داره که چه مستند؟, مستند. ما برده نمیاد یعنی تیز رو از اتدا مرتب کردیم یعنی نمیدونم چه خواهد شد شلید که ما اصلا باشید سلامت باشید چاریخ ماغذ به مثل تمدن از اون شهر سخته و. بعد مذکون شده برونه می دونم شده مالی کلو اینا رو شیفیتش رو می در این محبت حالا چند دقیقه برامون بگید قیفیت شبارت از این که یک انهدام یکسانه همه جا تابلوی انهدام این اون یکی می معرض میه که آیا اون تمردونشیم که به اون حد رسیده بودن از وضعیت فعلی جهان بیشتر تر بوده کار مردم بیشتر تر بوده یعنی یعنی از دارایی که کش کرده بودن مثلا از کامپیوتر و ماهواره اینا به نظر شما حالا آگه نظر کی نريد اینا در کامپیوتر و ماهواره در حوزه امکانات علم می ما از جوامع صحبت میکنیم و مراودات انسانی جوامع صحبت میکنیم میگیم که این مثلاً کاسه یا لیوان یا هرچیز دیگه ای که یا این مجسمه گاب یا این مثلاً پس کن که ابزار کوبیدن مثلاً قله فلانی هم رو میبینید این ها هم از این که از سفال باشه یا از سنگ باشه یعنی از گل دارو باشن یا از شکمه یه سنگ خارج کرده باشن از نظر ما مثلا در اثر لیستن فلزات آلیاژمندی مدلساز شده از نظر مسائل محاسبات دقیق فنی علمی کارهایی رو بیرون دادن که امروز تولید دوباره ممکن نیست یعنی شما وقتی مثلا فرض کنید که در یه دهنه عس ریختی که دو تا حلقه توش متحرک اینجوری اما اینا با جوش نیست این خودش مفرقه که این دو حلقه رو در اونه هم کرده که نازمان یه قالب ساگی در ماسای فوق اون سعی کرده اون مطالبی که در تورات هست تبدیلش کنه به یک مجموعه کتیبه تا هم تورات بصلا با عنوان سند تاریخ قبول شد و همه که اونا منظورهای دیگر خودشون یعنی اختراع قوم فارس و وجود یک پیر و نجادی بینامه آریایی رو از سر همین کتی باقی مگه ممکنه که یه آدمی که بر یک جامعه داره حکومت میکنه کنه بعد مثلا عکس خودش با سنگ بکشه بعد بگه من داریوشم خوهم می دارم معنی که تو حاکم منطقه یا هر سیزی یک تشکیم زنی هست بعد میگه من حقامانشی هم وگه همون امروز اون روز که این کتیبه رو میکندن مردم با این کلمه رو گروشان اگه تو حقامانشی هستی و میگی من نه نسل اون شاه بودن هشت نسل پیش از من شاه بودن، و من نومین نفر هستم پس پایستی که راقا در یه مدار 500 ساله بومیان یه منطقه حقامانشیان رو چون همش مثل کارهای بکچه ها شده می بینیمش قسته های کسی بسیار ناممکن، نامکن بی در و پیتربی ساعت برای من و شما ساختن و از این راه سوود کلان بودن. ما دو تا مهاجر که یکی اگر کوده از این متر اون یه خود از مرت ال به هم ارسی رو طرف کنیم. هیچ کدوم هممال این آب و خاک تو اصطال نیستیم. همه همون در فرمولای اعزام مهاجر میگنجیم گنجیم و اندازه کافی هم هست که ما بتونیم این اثبات بکنیم و ما میم میگم سال اینجا چون هم میگم سال اینجا خب که هم نیست که مثلا حالا گیریم که شما 8000 سال حالا ما باید چیکار کنیم مثلا, مثلا دولشیم شما سوال ما شیم چون 8000 سال پیشون you know. کودکانه بودن این مباعث خودش نادرستیش اعلام میکنه یعنی به شما میگه که جعبا سر هیچه مثل به صدا مذاهب نمیدونم سنی و شیعه و هنفی و, هنفی و هنف. مثلا فرض کنید که میگم که چیست بخاری در قرن دوم شیست هزار سنت را جمع بری کرد مثلا مثلا توهینه یعنی میدونیم ما را آدم حساب نکردن نگفته اینا هم فکر دارن و مثلا میگن شیستد ازار سند مثلا کجا و روی چی اینجا افعالی کرده چرا اینقدرش نیست اگر تازه سند مربوط به این مرتبه مذاهب اسلامی به درد این میخوره که گروه های مسلمان را به جان هم بندازه برای که گاهی اینجا کسایی میان که مثلا فکر میکنم که در یه حیطه ای توانان طب، و مثلا من دارم برعلی مثلا فرس شیعه فرزن دارم،, دارم مطلب بینویسن ایشون ماده مثلا من از ذرالت نجات بده و در مورد شیعه توضیح بده حالا من که به توضیح احتیاج ندارم برای اینکه معتقدم هرچه باشیم مؤمن و معتقد به یک مسئله دلیل نمیخواد. شما مثلا فرض کنید در معابد سیکه در هند شما وقتی میرید میرید می مردم از اون پای پله ها تا رسیدن به اون مرکز معبد رو شکم میخزن و بعد زمینو می بوسن یا زمین رو یا میلیسن بعد وقتی سرشون رو گیریم بگه این کار اصلا تو خیره بهت دیه، میگه اینجا هیچی کسیف نیست، جهانه چی تمیز و مقدسه این دلیل بگیه اون زن یا مردی که مثلا ذریع فلان امام را میبوسه یا فلان امامجاده را میبوسه او اصلا همین کار میکنن اصلا گوش نمیده به این که این تو مثلا یه جزامی اینجا رو گوسیده یا فلان و معتقد اینجا هیچ چیزی که، کسیف که نیست، هیچ اینجا مرکز و و شفای هر بیماری است که میشه بهش متوارسه این معتقده، معتقد اصلا هیچ دقیلی رو تکانش نمیده ولی محدد کارش فهم میکنه میگه چرا، کی، کجا در چه وقت، چه جوری فهم بکنه، این تا رو شما نمیتونید در کنار هم به بود بادار کنی. چون یکی اصلا گوش شنوا نداره چون نمیخواد اعتقاض شد دست بده چون مثلا همین دو روز پیش صفره فلان رو کرده برای اینکه بچه سرماخورده بود ممکنه همتونه دو روز بعد زیره یه بزنه اون میخواد تا آم داره بچه سرماخورده که بچه با پا پهم کرده انواع صفره ها برای این و اون و اون, و اون پس مسائل کلانه این برای صدا میبان مسایل کلان از ورودیه مخصوص باید داخل شما نمیتونید مثلا پس که وقتی میگن امون شیراز روانتونستان شیراز نیست شما نباید دیگه در قبول این که پس حافظ و سعدی نیستن دچار تزبزل و تردید بشه ولی اینکه مثلا کسی میگه که خوب شیراز در زمان زندیه مثلا تبدیل به شهر شد قبلا یه دهی بوده به همین نام همونو برشن درسته دادم بگیم اشکال نداره این مویثره یعنی تو مدار امکان قرار میگیره اما دیگه از اون ده نمیتونید مثلا بارگاه شاه رو جا ما دیگه دیگه از اون ده نمیشه شاه شد یا شاه ابو اسحاق یا شاه فیلان پنجایزار سبار برداره به بنابراین ما با نرمندیشی وقتی اون میگی یه دهه میگیم باشه میشه میشه بوده باشه یه ده اینا میشه بوده باشه در زمان حافظ ولی دیگه از اون ده نمیتونی سبسل مزفریان یا آله فلان در رویم جوی قول شما یه دهه که با بقایای اینا کجاست؟ اون جایی که مثلا شاه ابو اسحاق میخواه کجا بوده در شیراز؟ و آیا مثلا یکی که گچ کاشی یک چیز ازش پیدا شده یا نه؟ منظور من بحث قبلیمون این بود که ما اشیایی که در حوده تمدن ماقبل ما قبل پوری میابیم حکایت میکنه از یک توانایی در تراحی یعنی تراحی فوق فوق منتاز بره حکایت میکنه از یک دانش عالی آجبندی و قالب سازی و ریفتگری این ها که چیزای کوچیکی دیست که بسیارا جماعا ها هیبنوتی، یعنی هیپنوتیت در واقع دورخونی اونجی چیزان بوده دیگه و از این نظریت که در آنست از اونای گمشده میگن افکار هم دیگر میخونن اشیا رو بدونه اونا رو چیز نبرم اونا رو ولی اینا رو به این خاطر می میکنیم که میگیم این گاور رو ببین این کاسه رو ببین اون مثلا اون رو ببین اون رو ببین اینها یا اون کاسه سنگی رو ببین که مثلا نقوشی روشه اینها همینجوری همین جوری نمیتونه وجود ما اینها باید ریاضیات ها باید ر هر راهی و عجب شناسی و این حرف هایی که حالا ما حرفشو میزنیم که دانشگاه ها باید چونیش حاصلی نداره باید وقت شما قبول کنی که مثلا سازنده فلان دیگان که تش مثلا یه ترکیب بنیانی هست از نظر روابط اندسی این به تصادف اونجا به دست نایمده این یه دانایی بوده که منتقل هم نیشده از این نصب اون نه بنابراین ما میگیم که اینجا میتوان قبول کرد و اثبات کرد که تم مراکز تمدن شرق میانه از جمله ایران اگر به وسیله توت پوریم قتل عام نشده بود احتمال زیاد انسان در هزار سال پیش بر همه مشکلاتش قلبه کرده یعنی اگر اون دانایی قبل از پوریم ادامه طبیعیش انسان تابحال بر بیماری، بر جهر، بر برستنگی، بر فقر، حتی بر مرگ قلبه کرده بود. اما ما یهودی ها را مجرم میشنسیم به خاطر اینکه قوم پرستی و قوم کاهیشون اجازه میده که برای دیگران هیچ موجودیت و حوییت و چیزی باقی نذارن و مگر به دروق به نظر شما اون محابیدی مثل آنکولوات احرام مفر اینا چه تکنیک های خیلی سختی در به زمان ما تکنیک های خیلی پیچیده استفاده شده. هر وقتی که شما میتونید در این باره مشکوک بشید که این کارهای انسانی نیست نظریه های هم در این مورد وجود داره که اینا آثاریست از حضور یک تندون بسیار موفق. که انسان در براوردن این نشانه ها خیلی کمک کردن مثل کمکی که خداوند نوح کرد و بهش کشتی سازی چون اونجور در قران میگه به اون که من به تو میگم کشتی بساز یعنی به عنوان مربی کشتی سازی خود این خیلی جالبه دیگه منظورت اینگرمی برمیگردی به مثل حضرت سلیمان که اجنگرم درستی داشت آه... کجا نوشته این رو؟ تو قرآن بهتر جاهزن کن. که نکشید. ولی اشکه اسلامیه و مومیه که کوچک مومیه. من فکر که اون جنبهایی که داره که میگه مثلا اون تفتی که من در یکش من زمان حاضرم یکی از اون چیزا سر بازار بوده یا لیکن یکی از اون خدمات بازار بوده که میتونم حاضر کنم اون منویتی دارم از میکنم یعنی یکی از این چیزهایی که من کرد. اولی یه همچین چیزی رو در قرآن هم زیاد شده که من حالا اوم میگردم تو مزرعه. اشاره که همه اینا شکایت میکنه که انسان به وسیله یک دانش با, با, با برتر و دانش کلان که نگ در روی زمین وجود نداره، نک هم وجود نداره، به بعضی های تمدنی ورود کرده و بعضی نشانهایی به وجود آورده که امروز هم باز قابل تقلید نیست. چنین انسانی نمیتواند مثلا فرض کنیم که وقتی تاریخی رو باید شروع جمع میکنی نمیتوانید به این در ساخته هاش اهمیت ندید یعنی شما باید از طریق درست ساخته ها حوضه تمدنیه و اون جایی رو که اون درست ساخته ها رو پیدا کردید ارزش گذاری کنید حرف ما اینه که میگیم مثلا در جیروف شما با یک محبته بسیار وسیع حوزه تمدن انسانی رو برید که بقای های زیستیش مثل کاثب و دیوانو و دیوان و خلانی هر پشت که اینها انسان بسیار قدرتمندی در در, در بحیار گرفتن امکانات ریاضی و ماتریال های اطراقشون داشتن میگیم این قوم چی به سرش اومده که الان هر جای زمین رو میبینیم که یه قسم اینجاستی یه قسم اینجاستی دستبند اینجاستی اینها این که ظاهرا باید بسیار هم سروتمند بودن و مسلط به حوزه زیستی خودشون و امکانات و توانایاش چرا حالا رفتن زیر زمین چرا صحبهاشون خراب شده و آتستاده شده؟ چه ماجرای اینا رو به این روز دچار کرده؟ یعنی جنگ کردن با کسی یا اسیر خشم طبیعی شدن؟ جنگ با کسی در این خرابه ها آثار نداره. یعنی شما یه شمشیر پیدا نمی اون زیر. یه خنجرم پیدا نمی وسایل زندگی معمول آدمی به شکلی بسیار پیشرفته رو پیدا بکنیم پس میگیم که احتمال داره که اینجا مثلا یه زلزله دهرشتری اومده همه چیز رو نابود کرده رو هم کوبیده میگیم باشه میوریمش تو دایره امکان چون هر زمانی میتونه به هر شدتی بروز کرده بشه ولی اشکار میزنیم روش میگیم زلزله ی هم نمیتونه تمام آدم‌های منطقه رو بکشه چون اصلا اساسا سقفون نیستن تو بیابونن تو حیاتن یه جایی انکه امنتن اگه زلزله های 7 مثلاً که جنوب ایران در چیست بعد فقط تونست مثلاً 25 درصد مردم رو نابود بکنه 75 درصدش به سر اون ممکنه 75% نابود کرده باشه 25% جمعیت جان سالم بنوانید سال میدیم میگیم در اینجور مواقع بقایای اون مثل انسان های مرگ پوریسته در زلزله پس از آرام شدن زمین و عادی شدن اوضاع و نشستن گرد خاکا گرد هم جمع میشن هر کسی اولا میره به سراغ اون محابطهی که توی زندگی میکرده زمین رو باز میکنه سروت که میدونسته کجاست بیرون میکشیده و جنازههایی را اگر به دست میبونده دفت میکرده مثلا پس از این مقدمات اون وقت اون 20% که با بموندن به فکر بازسازی میفتن یعنی از یه گوشه ای ترمیم رو شروع میکنن شاید 300 -30 سال بعد اون شهر دو مرتبه قدرت پذیرایی از مثلا گروه معینه رو خواهد داشت یعنی نشانه این که اینجا یه تمدن در جریانه شما میتونید به دست بیاری اما اشکال در تمام سایت های که که در ایران پیدا شده اینه که در این حال که به شکل یکسان و یونیفرم نابود شدن هیچ اثری از باسازی هم وجود نداره این یعنی قتل عام یه نفرم باقی نمونده که, که, رفت که این قتله کردن کی تر؟ آره اونایی که موجب این قتله بوده پس از اجرای این قتله رفتن به سمت اونجا نایمارم دوباره نه اونجا اون رو نه او مذهبی برای خودش داره به نام ارشالین و مثلا قصور و سلیمان اون که اونجا است. در من هم در جی که واسه درمون زای ساز بس حالا اینایی که پیدا شده محصول بوده بیشتر با چیزها. باعث بوده میونه لابلای اینا, اینا ای کارخونه ای کارگاهی ای که اینا رو هم تولید میکردن و چون الان فرض کنید الان شهرهای ما اگه خراب بشه زلزله بیاد و قطلاام بشه بمبورد میشه بالاخره اثر درسته خراب شدن ماشینا پیدا میشه ولی خراب شده کارخونه پیدا میشه آره من کلا یعنی اونو بازارشی همون منتشر نکردم که چی پیدا کردن یا چی پیدا نکردم من و من نمیتونم به این سوال جواب بدم چون مد ندارم یعنی خودم تو اونو عضو, عضو حات تشاراق ن بودم تفاوت اسسای از بینه چیزایی که آثاری که از قبل از تفاامشون مونده با اونایی که شما الان گوش گذاشتم روشون رو میگید نه مال جدیده یعنی خیلی بارزه مال, <تصفح> مال تفه جمچیز یا مال فرد کنید بیستون یا پاساگات با احنام مصر یا همون موابط آنکروات یا جای دیگه یا اونایی که توی اردون هست یعنی خیلی اساسی هم اینا در چند رضی دسته بند شده جایی که است تخت که می اهمنیت معماری نمیده که مجموعه کامل عادی و معمونی است برای زمان خودش ولی مثلا آنکور رو اونی که که مثلا یه ایجاب ایمانی کم از است در جنوب شرکی آسیا یا در مورد اهرام مصر هم همین هفته میشه زد در اونی که است که هنوز حتی سوال های لازم در بارشون تدویل نشده، چه بسو پاسخ؟ بنابراین یکی دو سه تا مکان های مورد اشاره بیشتر نداریم که انسان نیازمن باشه در بارش تفخص کنه. که در رأسی، مثلا دیوار چین هم احتیاج به تفخص نداره چون در طول اصلا 1500 سال های دیوار رو که دیوار نیست جاده هست همینجوری ادامه دارن خیلی خوشمندانه است اون تصمیم که من گرفتن ولی با این نمه اون ها و در دیوار چین هیچ نشانه از اجابهای باور نشدنی در میماری نیست سنگی با داشتن رو هم دیگارا هزار سال دفنسان دفنسان کارگره ساده اینا رو اومده بره که تراشیده و بلوکاش داره بوده ای این قضیه در مورد همه اون چیزهایی که ما فیش میکنیم خیلی مهمن به خصوص تخت جمشید ساده و جاری تخت جمشید هم یه معماری بسیار رواز و معمولی است مثل دیوار چی؟ اینا پیچیزگی تو اجراش ندارند پاسارگات که اس مسخره است هیچ نداره که ما دنبال معمارش بگنیم یعنی یا بگیم اجب کار هرچی مهم میکرده پس ما یکی دو تا مثلا در جنوب شرقی آنکور واقعا دیدنی و خیلی مشکله که بعدم تصور کنه که اینجا مده چه کسانی زندگی میکردن که توانستن یه کوه را تبدیل به یه معبت بکن اونجا هست ولی مثلا اون چیزی که در قسمت جنوبیتر و دورتر شهر، در کشور اندونزی ما میبینین به نام برو و تازه ساخته است و سال نزا نصده هفته ها ساخته یعنی چه سال میشه جالب که این قضیه خود مردم اون منطقه میدونن که یونسکو وارد واسازی اونجا شده و ظرفه دوازده سال اونجا رو ساخته اما میگن که معبد اصلی خراب شده بود از بقایای های سنگ های خرابش ساخته شده نه آخشاردام همون رو میگن؟ نه آخشاردام که کار جدیده یعنی تازه آره تازه افتتاح شد و که نمیتونم میگن که این قدیم فعلا این چه نبرم، میگم تازه ساخت؟ هره تازه ساختیم هیچکی ادعا نداره، خود دوله به میگه تنها اجابش اینه که چجوری در پنی سال این کار عرضیم انجام شده این نیروی بسیار زیادی از معتقدین به انواع و اخسام مذهبه ها مجانن خودشون در اختیار اون کارگاه خودشون کار کردن که چیزی دریافت در نتیجه وقتی پروژه ساخت آخشاردام به دولت هند داده شد و به مجلس هند رفت پنجاه سال وقت برای ساختش مقرر شد، برا پنج سال ساخت شد این نشون میده که معماری اصولا چیز شگفت نیست الان شما پول داشته باش مثلا میتون آقشاردام بساز کار نداره که ی د س ی میکنه یکی ی گرش میسه به یکی آجار بالا شما میتونیم برای خودتون یه چیزی مثل آقش آدم بسنسیم بشد که میلیار داشته پس اینا بسیار زباعد ثروته اینها تولیدش خیلی جای شگفتی نداره برای اینکه یه مراکز قدرت با پولی که به دست میروه از مشرو عبدارمندا رو در هر رشته‌ای استفاده کردن اون‌ها هم نشسان برابر نقشه انسان اما این حرفا رو در مورد اهرام مصر نمی‌شدن چون اهرامش پیچیدگی‌ها فرآوان توشه که حل نشدنی است از نظر انسان امروز هم حل نشدنی است نمیدونه که این راهروی به این کوچکی و بالیکی چجوری ساخته شده چون انسان از این عبور نمیکنه پس این بنایی که اینو می‌ساخته خودش رو کجا قرار میده؟ یه سری مسائلی هست که اونجا جلوی سوالات سنگهایی که بر اون اهرام نه همون محل هست. نه سنگهایی که به اهرام آوردند، مردارش سنگ‌های آتشفشانی معمولی است که میتونه مثلا در سودان پیدا شده باشه بعد با قاهری از روی نیل آورده باشن واسه انیزیه تخریب مهم چند پارچه است که در اطراف گور هست اونها مثلا هر کدونش پونست تونه. یه سنگیست این اتفاق و در نزدیک دو متر و پهنای یه متر رو 20 بیس تون الان به کشیش پونست تون هست در یعنی در بردم افروفش ترمیاری در این از کجا؟ و وقتی یک تراش کامرن پاکیزه دارم یه دوتشون اینجوری گوشتن روهم یکیش کفه یکیشم تاقه وقتی که به دوستجوی معدن این سنگ ها چار پارچه پنج پارچه سنگ میرن در اورال پیدا شده معدن اون سنگ و عجیبه که همون جای خالی اون مثل سنگ پیدا شده داره. خب چجوری از اورال مثل این سنگ هایی و این وضعیت که اگر خوچکتا این بیملاعظیگی در بارش باشه میشکنه و وسایت دفاع میفته این چیجوری در هم دیگه؟ آوردنش هم معلوم میشه؟ این احرام به خاطر وجود این سوال ها جدا میشه از بقیه در ساخته های معماری سایر در ساخته های معماری جهان من های آنکور بلیه باز چیز مهم نیست. ثروت پول و تکنیک رو چون شما ست تا عمله بزرگی بگی این منطقه رو با بیل هرچی خواهد میشه بردارید و بر تبدیلش کنید به گودال این کار انجام میشه. یعنی اتیاج موجزه یا دانایی یا چیزی نداره. ولی در مورد چیز واقعا اتیاج در مورد تخت اسید یه سوالی به ذهن ذهنم خطور کرد این برنامه داشته می سا... ساخته میشده فقط احتمالا تو ذهنشون این بوده که یه کسای بیان هرایا بدن بعد قبل از اینکه این دادن هرایا اتفاق بیفته ترهاشو رو دیوارش کشیدن کاملا الان استناد میشه که آره چون این ترها بوده پس تذیرا رو دادن یعنی به صورت معکوس دارن نتیجه میگیرن اینو خودشون متوجه شدن که این کار خیلی من اونا تو دکانم چیزی نمیشم من نمیخوان و نمیخوانن متوجه یعنی اصلا اینو توضیح میکنن که توجه میکنن هیچو میگم که ما در مقابل خودمون صاحب نظر نمیبینیم که باشوارد وارد گفتگو بشیم و مسئول رو, رو روشن کنیم یه مش بچه رو فرستادن چند تا بغلان زلای فوش میدن بنابراین اگر ما یه روزی بتونیم مثلا مستند تقایی شست و بباریم با آنتن تلویزیون ملی شبکه یک پخش میشه و بعد یه میزگرد از کسایی که مثلا توان شرکت داریم و دارن در وقت مخالف موافق اخوند غیر آخوند نرفا اگر یه همچین وضعی که پیش گلد ما وارد بفرگوی ملی بشین اونگاه نتیجگیری ساده میشه ولی حالا که اصلا اونا خودشون دل دادن به کوچه آریانا. فارسی. راستن که در مورد آریانو آریایی و کوچه آریایی و بعد نژاد هند و اروپایی اینا رو شما اینا یعنی کلن رد می‌کنین. واسه چی یعنی اینا؟ که میگن آریاییای بودن، یه درستن هند، یه درثن سنت اروپا و با هم نژاد هند و اروپایی دارن. دلایلشون برای این کار بیشتر فکر ما این اشتراکات زبانی باشه. اصلا کلمه که که فرسی ما داریم فرزا انگوش میگه بر نمینام یه جوری با فینگر ارتباط داره نمینام یه کلمه تو هند هست با اصلا زبانی یه ارتباط نور میدن خیلی این ارتباط تمام نامبر اونم گرد باز نمره دره بله. که <تصفيق> <تصفيق> این ارتباط ها اولا باید به صلاح گستردگیش معلوم بشه یا دو تا واسه تا پنج تا 6 تا هفت تا واجه داره یا اشتراک واجهگانی به دلایل خیلی متعنم مطمئن نبیوه ممکن اتفاق میفته یعنی مثلا در دادوسته تا مثلا یه فرض کنیم ایلامی فرض کنیم میره هند که مثلا فلفل بیاره با خودش هم یه مقرد صفال میبره که صفال ها رو اونجور بفروشه مثلا فلفل مثلا میدم تصویر واقعی نیست بعد حوص کنه که از هند یه دونه مثلا زن هم بگیره یه که با خودش بیاره در ایلام به فاصله کوتاهی تعداد واجه هندی وارد زبان ایلامی یا روابط ایلامی میشه برعکس تعدادی از دوات های ایلامی هم وارد مثلا ذهن یک هندی میشه که حالا ممکن به بچه بده بعد بره خونهشون به مدر مادرش و الان شما مثلا فرض کنید یه روابط تجاری با فرزن آلمان داشته باشید یا با فاصله چند باکن با اینو مرتبط بشین سعی می‌کنه که چند تا کلمه از زبان آلمانی رو یاد بگیرید که مثلا وقتی که با اون طرفتون در آلمان صحبت می‌کنید سلام علیکم به زبان آلمانی باش بکنه که اون مثلا یه خود احساس نزدیکی بیشتر بشه یا برعکس او سعی میکنه مثلا سلامون علیکم او یاد بگیره وقتی شما زنگ بذنیم که سلامون علیکم اینا عوامی را سیار متعدد داره که واجگانی از این همسایه به اون همسایه از این با اون با اون اون در روابط تجاری، در روابط مرتبی در روابط انسانی منتقل بشه اینها آنچنان نیست که شما گمان بکنید مثلا از توش یه زبان مشابه این یکی زبان در حورا اصلا کجا جاریه این آریایی کجا جاریه ادعا میکنی؟ یه ادعاست دیگه ما هر ادعایی وقتی نمی‌تونه سوال جواب بده میشه نظریه شخصی وارد رپرتوار علم در اون موضوع نمیشه مردم هند رو با مردم رو فرض کنیم آلمان و اروپا گه نشام نجات میخونن. از یه طرف دیگه مثلا اینا رو جزء نمندم گندم گناه حساب مو کنم ناجده سفید گناه حساب بنام این رو به کلی بذاری که نار برای که اینا مبنا نگره که مثل مثلا حفاظ که روز به تخت جمشید زدن نمیشون بگی نگه گفتن کشکنده رو با دو آتی سدن حالای دیگه گفتنه که این دو سه کلمه یکیه سختتر از واسی سدن تخت می اینا شالله ثانیه همه شالان همه اون کسایی که درد مسائل را دارن فهمیدن تینش حالات همین و حتی مثلا یه نشستی بود تان شاموزان و استادهاشون بولن شه آقای خامنه ای و هرکی از این بچه ها می اونجا یه مطلبی رو می اونم سعی یه جوابی برش گسته چونستش که اشتباه فهمیدید شما ما با علوم انسانی هیچ دشمنی نداریم اما این علوم انسانی که الان در, در, از, در از غرب ما شما یه مسئله حرف رومی بزن در علوم انسانی که ممتاز باشه به قابل تحقیل و تحلیل باشه تدریس که ما تسلیمشیم ولی میگیم این علوم انسانی که در ایران امروز تدریس میشه به مورد توجه همه سوقات دیگرانه سکولاریت بیشتر رو تدریس میده بنابراین دیگه حتی در حوزه آدم هایی مثل مثلا رو کنید که روحانیت یه خود که کار می‌کنه، کنه این باطل شده هست وقت من تو همون کتاب سابقه, سابقه تصورات آریایی رو آوردم دنبال هم خیلیه دویس می تا اگر کم می شدن آرش نیست این یک تصوریه که وقتی شما دنباله مبدهش میگردی از خطف شمال و شما آدرس میدن تا آفراقای جمهوری چهالبه که باید طبیعتاً برعکس این باشه یعنی از جاهای گرم مهاجرت کنم برن اون جاهای خونک نهی که از گفت بندون از ظاهران اینها از گفت بندون برکل از گفت بندون تولید میشه اینها کسایی که خواستن برای ما سرگرمی فکری درست کنن هیچ ابایی از هیچ دروقی هیچ کخلی ش بس که میگن تفقیه جمشید را استیندر سوزون دیگه شما بقیه شو باید بدون سوال و جواب بخونید که با چیا طرف اصلا هیچ اوایی ندارن که حالا که محفظش آشکار شده همون دروغ ها رو شب و روز تو این تلویزیون و راژیو تقریبا هیچ برنامه دیگه نیست که به نحنی جیر نداده باشه به این مباحث عراجه آب و هوام که صحبت میکنن با صحبت آب و هوا هم هم کمارشی میکنن اینکه اینا چیزایی نیست که بشه در برایش اصلا حرف زد ولی کسی معتقده که آریایی ها بودن و نمیتونه رفت و پای ازشون نشون بده ما با او اصلا کاری نداریم که اگه راه تقدیم من بشه در من راه هم همه راحت هم. یه خلاصه از مثلت پورین میخواد بگید تا من یه سوال دیگه بکنم خلاصه نداره یه قسله هم صورت گرفته اینجا دلایلش هم پونزه تا دلیل مستقل تا دلی یادشت صد و چهار هست خاطرتون هست بازی دلائلش؟ یکیشه که شما گفتم که عدم بازسازی در ویرانه های معین که همش با یک اسلوب نابود شده باستازی صورت مگرفت این یکی. اونجا اگه شما یادشت رو خونی چارده تا علفه یعنی مثلا فرض کنید یکی از دلائه بشینی که آثار ادامه حیات پس از پولین فقط در قوم یهود دیده میشه دیگه بابلیه نیست آشوریه نیست ایرامیه نیست هیچ کسی نیست سر یهود هست خودت بهترین دلیل دیگه یا مثلا میگیم که این سفال را این عملشی مثلا ظاهرا باید که در سه هزار سال پیش ساخته باشه درد این خودش موجوده سفالسازیه و سفالسازی یه تیره ای از توانایه های قومیست که نسل, نسل به نسل به عنوان میراث منتقل میشه یعنی ممکن هزار سال یه خانواده فقط سفالسازی کنن و از اون طریق زندگی رو کنن. و هر پریودی هم کارشون کاملتر، زیباتر، تراهی بهتر، ماتریان بهتر و تولید بهتر میگیره ولی شما در همون منطقهی که اون گاو عملشی رو پیدا کردید به شد سفال ناگه ها نوازی میشید با توقف کامل سفالسازی و دیگه شما الگوی از سفال در همون عملش پیدا نمی کنی تا واسه همه ست ساله پیش جواهرات بشون هست؟ جواهرات بشون هست؟ یا فقط که داره؟ هم در چیز هست در نه عملش. در این نارو مارلیک هم پیدا شده هست برای بعد بگیم که همین آقایی که در عملش اون سفال رو می ساخت سال پیش هم داره سفال می زازه دومتوه وقتی این تا سفال رو می کنار کناره هم ببینید اون سفال سه هزار سال پیش بسیار بسیار بسیار استاده این سفال ست سال پیش هم در انتخاب ماتریال هم در پخت هم در لا اصلا ادامه یک زانای فنی نیستن اونا در اوج هستن اینا تازه دارن خب چی شده که این وسط به فاصله 2000 هزار رو این سال هیچکی نساخته و نمونه ازش به دست نیمده اون آدما و او سفار سازایی که اون گاوهار ساختن کجا میرن و اون تکمیسی که اونا برد شدن به کجا به سران پرس میشه که دیگه قابل استفاده نیست چرا اون آدم های ها گفت کن. در آذربایجان هم مثلا شما و هم دارید که نشون مثلا یه پیسینه هست یا یه لیبان تلا در حسنلو پیدا شده که خودش مکتبیست در شناسایی امکانات فلز و ویست دیگری ولی شما الان می‌دونید در حسن اگر یک بیلی اگر یک دیخانی بیلش کرد شده شده نمیتونه راست کنه میبره شهر بردش راست میکنه خب اون فرهنگ و اون تمدن و دارایون چی شدن که از یک زمان معینه همه جا در ایران تحتیل ما میگیم که این همون قتله چون اگه قتل عام نبود باسازی در این سایت های پون آثارش بود یعنی دو دومتوه رفتن اینجا از بقای های ثروت باقی مدد در زمین دو مرتبه مثلا شهر ساختن، کارگاه ساختن، تولیب کردن تحال که چند چیزی رخ نداده وقتی چند چیزی رخ نداده یعنی انسان در اون منطقه نبوده چون انسان که خیلی موجود لجو دیگه همه چی رو فوری میخواد تصاحب کنه و باید تصاحبشن با به نوعی مداخله کنه شما در این مملکتی که داری زندگی میکنی تا دویست سال پیش زمین صاحب نداره همه جاش زمین زیر آسمان افتاده هرکی درش مخواد بیره هر درش مخواد و هم بره یه دیوار میکشی چندت درخت میذارم شما لهم چشید ممکنه یه سرزمین تاریخی زمین مفت رید باشه هنوز هم مفت شما هر جا رو آباد کنیم ولی برو اون تو مثلا تو کبیر ورامین که توان خیلی هم حاصل یه چا بزن یه چار دیواری بزن توش مثلا یه یونجه بکار بپوشت به ارتش برای اصفای ارتش به مثلا اینکه شما اونجا رو بالا و ریتولی میشه ما شما, شما میتونی بری رسمند به سبت بگی من اینجا رو آباد کردم و سند بزنید برای کی برای این سند میزنید آخه چجوری ممکنه یه تشکال پوهند حالا من این های اون یادداشتهایی که من در مورد نقشه شهرهای ایران در زمان غازها رو بگشتم شما مطمئن باشید در سد تا هفتاد سال پیش هیچ شهری در ایران نهست و هفتاد سال پیش نقشه تهران رو به شما نشون بودم در سال ۱۰۰۰۵ دو دفت که علا تو همین چیزی که هرنا صحبت کردیم اتفاق افتاده یه جایی رو در طول هزار و دویستی صد در هفت متر دیوار پیشتن نگن تیرانه هیچی هم توش خوب خب اینا دیگه یک فراره که ما آدم رو از دیر خواهر کردیم که شما بگن که باره این ما مرومن این همه نشانه است و یکی دوتا تا نیست چهارده تا یه یهودی‌ها یه جنایت مرتکب شدن اینو چرا کتابا رو با اینکه کتاب تورات رو اینا رو با دست خودشون دوباره بازنویسی میکردن چرا داستان این جنایت رو دوباره میآورن نا ممکنه در تورات قدیمی مثلا استرمه احقا و کتابش نبوده باشه اینجاست با با چرا برا دسته؟ برای دست برای که اونا احتیاج داشتن به یک امپراتوری هخامنشی و در این داستان و امپراتوری وجود دارد. خب لادن ن بیا اون قتللا ها دوباره اون اشاره کنن چراا که این درد دسته باخواام دش به که این اینجوری بنویسیم من که نمیکنم تو ض ن چی گشته؟ ولی اون چیزی که آدم در داستان اسپرو افخواهی میخونه؟ نه سوالم اینجاست که شما تو بخش از از نوشتهونداری که اینا برای اینکه آثر پوری ما از بین ببرن اومدن بهناازی کردن بعد از مارهجدت دادن آوردن، تو اون جاهایی که بین رفته بود کوچون در اونجا مستقر کردن که بگه اینجا پره جنب و بوده راحت تر نبود همون خود کتاب رو عزباین ببرنن از نظر نوشته جا در... راه که نمیشه بین بردش کرد وقتی که یه میلیون ها آدم در دنیا بسته رفتیدن یهود هستن و اینا به کتاب احتیاج دارن تورات که دور انداخته آبادن که اون باد که تو میشناسیم هم داریم که مسئله بسلا کتاب نهم است. از ابتدا مثلاً همراه آبادن اینا اینا تورات می‌شونن. تورات یه پنج کتاب سفر آبادی است. از پیدایش شورنده خروج و حرفا از بسلا آغاز پیدایش دین یهود تا مرگ موسی. این پنشت کتاب میشه بعد از اون یادداشت هایی تاریخ یهوده که نیمیگه از آسمون نه ایماده مثلا پرست کنمیم که کتاب به نام دانیاله یکی به نام اسکره یکیش به نام عشق یکی به نام اینا دیگه جزا تورات نیست اینا زیل تاریخی تمدن یهود پس از مرگ چیز تا طلوع مسیحیت بعد از مسیحیت دیگه داستان نداره این داستان رو نروزه دا قبل از بنابرای اون توراست نیست که بخوان حسبش کنن یا شدش بکنن وانگهی این که کار ما که بگیم این نسل کشی در ایران اتفاق افتاده و این علائم نفایت از این میکنه که یهودی ها این کار کردن چون بعد از این نسل کشی فقط یهودی در منطقه وجود داره. دیگه هیچ کدوم از اون حسامی تمدنی که حتی در خود تورات هم هست آثاری ازشون نیست. مثل همون مطقبی که راجع به سفال عملش کنید. بنابراین اولایی که یهود نمیتونست فکر بکنه که یه روزی هم پاشدیل میکنه در ماجرای تحملی در گونه عنوان ایران. نوانوان افتخارت برای خوبیش بشهد. ممکنه اصلا هیچ کدوم اینا درست نباشه یعنی این داستان پردازی که در تورات های کتاب های منزل به تورات به نام و کتاب اسپر آمده بیشتر یه سند حقاملشی است یعنی وجود خشایار و دربارش و وزیرش و کنه یعنی آن رو میخواد اثبات بکنه. وگرنه نه نمیشه اون مثلا گفتش که وحی آسمانیه و همراه تورات اینا زیرای بر تورات و ارزش مذهبی دینی که اصلا نداره در مورد این که آیا در مورد تاریخی یهود درست گفته یا نه یهودیان یا علاقمندی تحقیقات پامل داری باره نیستن اصلا ما نمیتونیم راجع به بنیان پیدایش یهود به یهود فعال بدیم یعنی بشیدیم که اگر شما معتقدی که موسا شما رو از مصر نجات داد خوم و پس شما مصری هستید <تصفيق> بالاخرهما توضیح بدی که در مصر چیکار میکردی از کجا آمدی اختلافت با فرعون چی بوده چرا اون چشم دیدن شما و شما چشم دیدن اون نداشتید اگر شما یه نیرویی که از مصر خارج شدین حالا هم برای بازگشت و سرزمینتون ن باد متوجه مصر میگید ما قبلا اینجا بودیم به دلیل قرآن و به دلیل تورات و به دلیل انجیل پس تزمین ما رو به ما پس بودیم شروع مالی رفتی تو اوشلیم که رفتی اصلا به تو نداره؟ خب اینا اصلا حاضر نیستن در این موضوع ها یا جواب بدن که اگر خروجشون از مصر قطعیه و خبشون قبول دارن پس حالا هم که میخوان چون یهود هرگز نتوانسی سایه درفت در رو به عنوان وطن خودش معرفی کنن حالا که اماده دو برای خودش رو روز بکنه رفتی ویچاره اسم فلسطینی هم میکشه یه بیگه تو اینجا و این طوراتی هم که ساخته اصولا آخرین ورژنش همینه که ابراهیم داره که تو منطقه را میفته افته وید پیش فلان گلایه جلای کنه که منو پیره من میگه خب از این ردخانه تا امروط کنم تو یعنی سند بین و در این قرآن های جدید به نام یهود سالش کردن و او حالا میگه اصلا شما این چه کار می‌کنید؟ ما هر خداوند بخشیده به ابراهیم و فرزندانش اومد خداوند دیگه بخشیده به ابراهیم و فرزندانش خدا چند بار در قرآن گفته که ابراهیم و فرزندانش یهودی نیستن اینا مسلمان هم و بنااری که اینم که نمی‌شه چرت و پرده؟ میگیان باشه چشمی ما از این جهت بحث این چیز رو میکنیم که بتوانیم نقدش کنیم میگیم مثلا فرش کنیم یه کتابی هست اینجوری اینجوری اینجوری نوشته و اینجا و اینجا و اینجاش این به این دلیل و این دلیل و این دلیل خونلاویه یعنی شما نمیدونم یادشتان رو نمیخونیم بنابراین نصفات قضایی خیلی وارد نیستیم ما میگیم این ورودیه تخت جمشی بالای سر این د قبل از اینکه که مرمی ها وارد تخت جمشید بشن و این استفرانیش تا تو فلانجای زیر خواهد که بالا یه صفحه سنگی هست هیچی روش نیست داد این اما به مست اینکه که مرمی ها و این خواهد رو برمیزنند و اون راه رو باز میشه افراد اونجا یه کپی خب چیکار باز بکنیم اگر من میتونم سوال کنم این یک کتیبه جل جدیده چرا ادعا کنم همه یک کتیبه چون مطالبی که اینجا و با بالا سر این استفینش نوشته همون است که در دیوار تچهر یا در مثلا دور تا دور اپادان ها هست این مطالب همه تقریبا یک کتیبه یه هر را 20 بیس جز اکرام خود این یعنی جل موضوع خیلی روشن از داده اگر ما موگیم کتیبای تخت جمشید جهده اگر کتیبای را از تخت جمشید حرص کنیم چی میمونه؟ یه مجموعه بابلی چون اون جمعه بابلی ها نباشه؟ چون آثار سر راه به سلطه بابل هم باز نشان بابلی دیگری ما باشتن بود. و و شاید این ها کتیبه هاشون رو بر گل و خش بذاشتن، نه بابلی ها کتیبه هاشون رو بر گل و خش گذاشتن نه بر کتیبه های سنگی ولی به این معنی نیست که بابلی ها هیچ جا با سنگی نمیتونستن کار کنند چون همین استفه اینسا که در جلوی تخوی جمع شده و همه سنگیه در بابل هم هست فر یعنی به این معماری قریب و ناتوان که نیستن که. بنابراین ما حالا به عنوان یه مطقر میگیم که تخت جمشید اصلا یه بنای بابلی هست. و شما آمدید این بنای بابلی رو با نقص چند تا کتیبه با مطقره های یکتان میگید مالا حقامانشیان همین کار رو در توراک کردیم یعنی دو دوتا سنت بیشتر ندارن تورات و کتیبه ها این ها رو ثابت به شکل جعلیه کلن پاید میشن همین کار شده یعنی یاد بشه دیویس من این رو, رو بردم گفتم همون حقی که الان زدیم میگم که وقتی شما کتیبه هاتون جعلیه توراتتون هم قابل سونندیست حقامانشان از کجا بیاریم این درست نیست که مثلا ما بگیم چون داریوش در فرون جو منم داریوش شاه هخامنشی بود. به نظر تو اینا بود از بودن داره به شرطی که اون متن واقعا درست ترجمه شده باشه درسته؟ اما یه ترجمه من مثلا سعی که ترجمه درسته، باز میگیم فقط این مال هخامنشیه. نه اصلا موضوع خیلی فاجعه باسه از این حرفا. یه سری میش که میگن مثلا گروتفند و, و فلان و فلان و یه اسم لازار اون این میخهارو تشخیص دادن که چیه گفتن این الف این بس این پس این ته ما کاری نداریم بسیار خوب وقت شما با همین حروف میخی که الفش اونجوریه، بش اونجوریه مثلا نوشتید خوابات ها مثلا درست؟ خوابات رو از کجا رو هم میدیدی چی؟ فرهنگ لغت داشتی؟ از آدمای اون زمان کسی با آقا بود که پرستی خوابات بسی این ترجمه و اون خط قلابیه یعنی قبلا آماده شده بعد دادن درست مجرد رفته کنده بعد دیگه یارونم مثلا تو بشه مورق و بعد بگو اینجا نوشته منم داریوش رو یعنی چی منم داریوش اونجا تو از کجا فهمیدی که این به این معنی دیکشنری داشتی چه خ... از کجا آوردی اینها آمدن یه خط را یه خط را به ما معرفی میکنن بعد از درون این خط یه زبان بیرون میکشن از این خط تو بگی این فایلشه اون مفعولش صرفتشه تو کجا بود در همه موارد اینجوریه و هیچکی که بینه نگو که بابا با شما داری خط میخونی چجوری زبان از تو این خط بیرون کشیدی به همین مسخرگیه همه جا یه معرفی نظر درست کنم. آخ چی میخوریم میگم برای من نهار خودم تهیه میکنم میام خدمتتون. فلسط... دار نه، الان وقت شده بگید من نهار تغییر. نه، نه نمیزنید، زاین نهار میارم. چه می‌دونین من نهار نمی‌خورم. خب پس سر منم نمیکنم چون غذا رو نخوره. نه، سفارش نمیکنم واو هر روز مشون داریم. اگه شما نهار کولر باز نهار من اینجوری امطاع. حالا من میگم براتون شما یه بخشی از نوشتاتون تهمید این که ماجره یونانی بعد از جنگ یونان و روم از اون آتیشتوزی فرار کردن اون از سمت این شب میانه بعد با آزادی تمام بخشی از با خودشون آوردن بعد این تا سهکی های زرک کردن نمیدن ساختن برای خودشون حالا خونه های ساختن با آزادی تمام این قبل از اینه که مصنای حالا از این سرزمین ایران یه دییان مستقر بشن که برسه به در دوران صفبیه. اون قبل از, از ما دو سال پیشه ماجر های یا ایران. که من ن 500 سال اینجا میمونن درست به اون زمان پس آثار تخریب بیشتر بوده یعنی اینا اون داییت رو میتونستن برینم به کشور خودشون با این که اینا با دنها کردن بعد پونست سال, سال هم برگشتن رفتن که آثار آلا محاوزش اینا مونده ولی نزدیک به هزار سال شاید بیشتر از هزار دیویت سال هم می ای که میان هنوز میترسن از اون محیط خب با ترس و تو قلع و کوهای اینا مستقر میشن که کم کم الان میرسن به امتداد اونا میرسه به ما چرا اونا نمیترس ولی اینا آوازم برم یکی از قبراشون رو بهش کردم. یه سوال بینه که تا چرا میترسیدی اون نمیترسید این هم برای من که این, از این احساس آزادی نمی کردن. هنوزم اونا بازمانده یک قوم بسیار گردن که لفت تاریفی با توانایی های فرابان بودن معاجره اروپایی معاجره یونانی. یونانی چون اون سکه هایی که اینا چاپ می زدن اونا بسیار سکه های از زردبه کم به هاست یعنی قد یک قرون ماست. یکتر اونه اون موقعی که یک قنیان پول بود داره از دو می شد سکه هاشون فقط نغره است و ارزشش از مثلا چار گنی اون بردار نرفته این سکه ها یه خصوصیات مشترک دارن یعنی همش بالاش شوشه حکومت در طبیعی با اون زیرشم نشه زنده با دیونا کلماتی که بر پشت این سکه ها معمولا ضربه کلمات تمدنیه یعنی مثلا میگن این آقا یه ای لقب به کلش بده یعنی سردار سازندگی مثلا واقعا همه همچی لغبون گرد یا دوستار به یا یا. تاریخی که این سکه ها دارن همش تاریخ های اسکندریه این یعنی تاریخ های عروس در واقع بعد از مرگ اسکندر تاریخ بوده از که زمان پیدایش نخستین نیست که ها سال بعد از آتش گرفتن رو یعنی آتش سده شدن آتم هست زمانی هم که این سکه ها تمام میشه تقریباً 20 سال مونده به سقوط کامل روم در منطقه گروپ این سکه ها به صلاح خدایان مورد نظر یونان باستان لوگو ها مثلا یه لنگری کشتی یا مثلا برشت کنیم که یه چیز یه علامت خرشتی بیدن هم اسکنگیم نه الان مشتریق در عویان یونانی داره این سکه ها با سکه های سلوچی فرق میکنه که در بین اون این از مرگ اسکندر ساکن شده بودن سکه سلوکی نه اون حکومت در تبعید را داره نه اون زندواد یونان را اما سایر نمایهاش با سکه های به اسطلاح یا یونانیان برابره این نشون میده که اینا دو تا با این که از یه فرهنگ اومدن ولی با هم مخلوط نشدن او قلم خودش رو اداره کرده اینام قلم روی خودش رو اداره کرده از نظر تاریخی سوال اینه که وقتی این جمع کثیر یا نسبتاً کثیر وارد ایران شدن یعنی اگر در اون در بینون نهره نموندن چون بینون نهره این در اختیار سلوکی ها بوده و چون هر دو از یه تمدنن سلوکی ها رو دشمن فرض نکردن که باشون به جنگم رو قرار دادن هدایتشون کردن به محیط جغرافیایی ایران که هیچ که صاحبی می نداشت جالبه که اینا اینجا میان بی که کسی راه را بهشون ببنده و مانعی بشه برای ورودشون و 500 سال زندگی میکنن یا به 500 سال زندگی میکنن بی کسی باشه که از اینا چیزی بیا بزه. یعنی اگر انسان در منطقه بود در این 500 سال فرهنگ اینا رو در خودش حرض میکرد نااقل زبان اینا یاد میگرفت در مرابدات اجتماعی مثلا کار با مرمرو مرمر و میامو اون کارهای بسیار ظریف یونانی که در, در همین ایران هم باقی گذاشتن اونها ادامه میدادن ولی با خروج یونانی ها از ایران باست کسی هست اون تمدن خالیش فکر نمیشه. یه یعنی بوده یعنی اون تمدن دیگه آثار ادامه نداره در... یعنی شما یه ده نداری که مثلا یونانی شده باشه زبان یونانی به کار بره یا حجاری های اون مرمر رو یاد گرفت. اینا نشانه اینه که اگر ما میدیم اینجا بر اثر پوری انسان نبوده یکی از دلایلش همین چیز هست. که اگر انسان بود هم در مورد ورود اینا مقاومت می‌کرد، هم پس از خروج اینا نشانه های از آموخته های یونانی گروز میداد نداریم هیچ کدوم شماد ازداد ما که وارد ایران میشن سرزن میشن از کجا نمیدونیم با تحقیق بشیم ما منطق... باقتا مسئول این نیستم از کجا آمدن ما میگیم که این آهایی که اومده رفته مثلا در سولوز یه قبیله با هم چادر زدن زیاد شدن حالا مثلا شهر هم دارن و یه حرفا وقتی یک سوال شما که اومدی اینجا فرش میکنه میپرسه فلان رهین فلان این حرفا پیر مرده رو هم میگن که اشتر ساله که عقبتر نمیری من رفتم دنبالیم بعد میگیم وقتی اینجا اومدی کسایی بودن که بیرونشون تردی نشستین جاشون باشن یه جا آدم نبوستن وقتی اومدیم کو در خالی بود ما خوشم اومدیم جا چادر زنیم. مثلا میگیم خب پس این زمین از کسی نخریدین. یکی ای اینجا آدم نبود که به من زمینه. در واقع اینام بومی اینجا نبودن. دلیل اینه سهون که اومده بودن. اینا بومی نبودن. پس میتونستن از اون جایی که بولان شدن اومدن، از اون تمدنی که بولان شدن اومدن یک چیزهای با کوشش بیارن. ولی چرا از سهف شروع کردن برای اینکه اینا هیچ فروششون مصرف تامچو که میشه حد زد و نمیشه از کرد چون اصلا از آبکارون اینا خودشون آشیاره و چادر که انتقال پیدا میکنن به منطقه این ما اونها شهرنشین و متمدن نیستن یکی دو تا نشانه کوچک بدیم از جمله مثلا یه فیلمی به نام علب از تلویزیون پخش شد که نشون میده که حدود 170-80 سال پیش دو سه تا انگلیسی سوار بر اس یک قبیله بسیار بزرگو در بین اون نهرین جاکن میکنن با گوزفند و نرف و سر غلال می و میان دروره یو... ارومیه استان پیدا میکنن این فیلم کهانه خیلی کهانه است یه رد پایی از این انتقال آنیرو از یه منطقه اون نهر این، ایران رو نشون میده ولی سنده های در این باره وجود نداره الا خود اشایر نشین ایران از هر کنوشو میپرسی که از که اینجایی یه عددی هم دلواره دیگه سال میدن و نه فقط اونایی عددی دلواره دیگه سال میدن بسی مثلا سنندج را وقتی میپرسی میگی آیا شما محچه به کهنه دارید در سنندج میگن آره مرسد سال میشه آسای حیات بیرینه در هیچ کجای ایران نیست همه اینا نوع جلیده س سر سر سر